سوختگان تا سوعای حسینی سلام بر عاش روان و دلهای سوخته ای غم زد ها بسوزید ای گش کا بریزی که امروز تا سوعای از تاسوعای حسینی در خدمت شما شنبندگان گرامی هستیم برنامه موج عشقی رو تقدیم میکنیم به همه شما از آداران و, و عشق ریزان حضرت عبا عبدالله علسین علیه السلام به ویژه حضرت عباس امروز خداوند رو شاکریم به خاطر نعمت سوگواری بر حضرت عبا عبدالله علسین علیه السلام چارده و سی و شش دقیقه بخش های مختلفی رو در این برنامه انشالله تقدیمتون خواهیم کرد و امیدواریم که شما عزیزان هم ما را همراهی بفرمایید تا ساعت 7.45 دقیقه که این برنامه تقدیم میشه به همه شما هم‌وطنان گرامی شنوندگان رادیو معرف و در این نحله ویژه برنامه موج عشق مشک بردوش دور شد از التهاب شد اما تصویر این زلالی بی پایان تا دامن ابد در جویبار تاریخ تکرار می شود و امروز تکرار این تصویر است تاسوعای حسینی بر عاشقان حضرت عباس علیه السلام تسلیت چند حمه خص رو به خبان همشان و سین زننا موی کنان مو و پریشاطلبیان سو عب یاتاببان که موجا چه شقدر قچه ر آبی برسان به لب سوختگان به سر اقمت هرری از دان که بودی چه بادی ساختخ به حال معدبا بین رواصد جاده و صیف ها در رقتمش با باب ماه بنی هاشم ابوالسلام دا صفه داد جهان دیر و جهان دا قد علم کرد فست مردی و مردانگی اش که امیه چو نمرده دهمت آه اگر آ بود نعمت جانم حرمت حرمت قبلای حاجت ما ای حرمت حرمت قبلای حاجت ما ای حرمت حرمت, حرمت. ذکر لا یهاج آسما ذکر تو تسبیح و مناجات هم عالمی ثاوز شهیدانه هم عالمی سالی موهبنی هاشمی نجل علی باهبری هاشمی سید و سالار سپاه حسین سعید و سالار سپاه حسین یود سر و دست به راه حسین یود سر و دست به راه حسین ائمه امام اخو ابن عم امام ابن حضرت عباس علیه السلام حضرت السلام امام و اخو ابن امام ام امام و ابو خوب دوستان گرامی برنامه موج عشق تقدیمتون میشه تسلیت و تعزیت میگم به همه شما شنوندگان گرامی این روز رو روز تاسوعای حسینی رو در برنامه امروز توفیقی است که حضوران در خدمت حضرت الاسلام مستمین دوست محمد رضا جباری باشیم و بخش با کاروان کربلا رو در حقیقت به صورت زنده تقدیم شما عزیزان کنیم و البته مفصل‌تر امیدواریم که شما عزیزان هم ما رو همراهی بفرمایید. آیه جباری سلام می‌کنم به شما خیلی خوش آمدید. قبول باشه عزاداریاتتون. علیکم السلام رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم خدمت حضرت عالی و همکاران گرامی و های شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و عرض تسلیات دارم امروز رو و آرزوی قبولی ها و عرض ارادات به صحت مقدس ابا عبدالله علیه السلام و یاران اصحاب اون حضرت به قبل فضل عباس علیه السلام دارم برای همین سلامت سواست و ما در آن میدرخشد امروز روز عزاست روز مصیبت ماه بنی هاشم حضرت عباس است و صاحب عزا حضرت و زمان عجل الله تعالی فرج او شریف آقا سرتان سلامت اجرک الله فی مصیبت عمکل عباس در کتاب شریف بهار الانبار آمده که حضرت بقیت الله هرباحون له الفدا به عموی خود حضرت عباس این گونه سلام میدهد السلام علی الاباس ابن امیر المؤمنین الموباسی احاخو به نفسه لقدهی به امسه الفاضی له الواقی سلام بر عباس فرزند امیر مؤمنان که جانش را در راه مباسات با برادرش تقسیم نمود دنیایش را برای تحصیل آخرت صرف کرد و جانش را برای حفظ برادر فدا نمود ای به یار ای به یا می‌لش جان در هر با جان حسین پاس هم روزهای گذشته اگه برنامه ما رو شنیده باشید ما تا بقای تاریخی تا هشتم آشورا رو برای شما بزرگوران گفتیم و در این بخش و خنان مجدتالستان و مسلمین دکتر محمد رضا رو شنیدید امروز توفیقی است تا حضوری در خدمت آی جباری باشیم و وقای تاریخی امروز تاسوعای حسینی رو مرور کنیم و از زبانشون بیشتر مطالب رو بشتریم آی جباری از این مطلب شروع کنیم که علت تعلق به حضرت عباس امروز یعنی روز تاسعا. چرا به نام حضرت عباس نامگذاری شده بسم الله الرحمن الرحیم مجددًا بنده تسلیت عرض می‌کنم شهادت ابی عبدالله علیه السلام و اصحاب یاران اون حضرت رو و بیجه عبدالحسن عباس علیه السلام شخصیت بسیار گرانقدر و بزرگوار و اسوه و الگو در میان فرزندان معصومین علیهم السلام انگوش شمارند من. کسانی که واقعاً بتوان از اونها به عنوان الگوی تام یاد کرد تالی تلب معصوم ازشون یاد کرد بله. که در رأس اونها عبدالفضل عباس علیه السلام هست حضرت زینب سلام الله علیه هاست و بعضی از دیگر امامزادگانی که مثل حضرت معصوم سلام الله علیه ها و خب عبدالفضل عباس علیه السلام به لحاظ جایگاه و شخصیت رفی ای که داره و نقش عظیمی که در حادثه کربلا داره جاد دارد که روز خاصی به صلاح متعلق به اون حضرت بشه و خاص برای اون حضرت ازاداری بشه بله. هرچند روزهای دیگر یا شبهای دیگر محرم رو هم خب مادهان و مرسی خانون تقسیم کردن هر کدوم رو اختصاص دادن به یک از شهدهای بزرگ بار کربلا اما میخواهم ارز بکنم که روز تاسوعا اختصاصش به ابل فضل العباس نه به خاطر صرف اعتبار و تقسیمی است که ماده ها انجام داده اند. بله. مثلا اینکه شب هشتم رو به علی اکبر سلام الله علیه اختصاص دادن شب هفتم رو به علی اصغر. خب در روز هفتم یا در روز هشتم حادثه خاصی نداریم که این اختصاص رو موجب بشه یا شب‌های قبل به همین ترتیب. اما در روز تاسو آ ای هست که مربوط مجدد با سلام الله علیه هست و لذا این اختصاص به جز اعتبار یک زمینه واقعی در عرصه کربلا هم داره بله و اون این هست که خب عبدالفضل عباس علیه السلام چون همراه برادرانش از مادری همچون ام البنین زاده شده بود و ام البنین ریشش مربوطه به قبیله بنی کلاب بود بله و بعضی از کسانی که در حادثه کربلا نقش اساسی در جبهه دشمن داشتن مثل شمر و بعضی کسانی که در رتباه پایین تر بودن از این قبیله بودند لذا تلاشی صورت گرفت برای امان نامه گرفتن برای فرزندان ام بنین اول فضل عباس علیه السلام و سه برادرش عبدالله و جعفر و عثمان این تلاش صورت گرفت که بر اینها نامه گرفته بشه به دو هدف میتوان گفت گرچه این دو هدف در متن تاریخ نیومد اما میتوان در تحلیل به این دو هدف رسید یکی تضییع جبهه ابواللاله سلام وقتی شخصیتی بخصوص مصعب فضل عباس علی سلام کناره بکشه از ابواللاله سلام خب این فرولختن یکی از مهمترین ارکان جبهه ابواللاله سلام هست و تضییع دیگر نیروهاست نکته دیگر هم برمیگرد به همون خوی و خسلت های دوره جاهلی که متاسفانه بعد از اسلام و گذشت چند ده از ظهور اسلام همچنان در جان بعضی ها ریشه دوانده بود و وجود داشت به اونه که بحث قبیل و تعلقات قبیل ای که در جاهلیت وجود داشت و همین که کسی تعلق به قبیله پیدا کرد وزیقه خود میدید که از اهل اون قبیل حمایت بکند دفاع بکند و جانب داری بکند در این دوره هم اون روحیات هم وجود داشت چون که بعد از حادثه کربلا هم هم روحیات قبیله گرایی در تاریخ اسلام خیلی حوادث رو موجب شده موضع گیری ها رو موجب شده یه کمی هم نکته بود یعنی نه از این جهت که ببیند به اصطلاح اون فرد قبیله چون جانب حق است من از او دفاع بکنم بلکه از این جهت که صرفا تعلق به اون قبیله داره گفته شده که فردی بود به نام عبدالله ابن عبی محل ابن حزام که ام البنین امه او به شمار می آمد. او در اون مجلسی که شمر ملعون در حضور ابن زیاد بود و دستور رو از ابن زیاد گرفت برای اینکه بیاد به کربلا و اگر عمر صد حاضر نشد با عبا عبدالله علیه السلام به جنگ چون عمر صد مماطله میکرده تلاش داشت کار رو به مصالحه بکشانه و این اخبار جست گرخته توسط جاسوسان ابن زیاد به گوش او رسید و لذا با ای شمر رو فرستاد به کربلا و به عمر صد داد که یا کار رو تمام کن و یا فرماندهی رو بسفر به شمر ابن زل جوشن و تو اون مجلسی که شمر اون نامه رو گرفت به مخواست حرکت بکند این عبدالله ابن عبی محل بن حزام به ابن زیاد گفت که فرزندان خواهر ما همراه حسین هستند که خب مشخص امور بناید خواهر او نبود اما بر اساس همون خلق و خوی قبیل ای زنان قبیله رو به امان خواهر خودش حساب میکردن مردان و برادر و امثال ولذا این تعبیر رو ابن زیاد گفت که اگر سلاح میدونه امانی برای اونها بنویس که ابن زیادم با خوش روی میگن پذیرفت و بلا همون تحلیلی که عرض کردن و به کاتبش دست داد که امان رو بنویسه و اون عبدالله ابن عبی محل هم امان نامه رو گرفت و گفتن توسط غلامش این رو به کربلا فرستاد و خب از این نقل برمیاد که اظهار امان نامه به فرزندان ام البنین از جمله به فضل ابوالسلیم سلام شاید در دو مرحله صورت گرفته یک بار تو نقل هست که این غلام امان رو ارزه کرد به فرزندان ام و گفت این امان نامه است که دایی شما فرستاده همون عبدالله بن بله. و اونها گفتن که به او بگو که ما رو نیازی به امان تو نیست امان خدا از امان پسر سمیه بهتره یک نقل و نقل دیگر هست که خودشم رامد و خطاب کرد عبدالفزد عباس علیه السلام و برادرانش رو و از کنم که همقوم قابلی. هم همقوم قبیلی بله به عنوان همقوم قبیلی و تعبیرش بود که خوهرزاده های ما کجان اومد فریازد در مقابل خیام عبدالله علیه السلام که خوهرزاده های ما کجان و عبدالفزد عباس علیه و برادرانش اومدن و گفتن که برای چه کار اومدی و گفت که شما در امانید و برای شما امان نام آوردید و اینها در پاسخ اختن لعنش کردن شم رو که لعنت خدا بر تو با اون امان نامه ای که برای ما آوردی که اگر واقعا تو دایی ما بودی آیا حاضر می شدی که ما در امان باشیم و فرزند رسول خدا سالالانواله در امان نباشه ولی زا امروز ام چون شمر هم در تاریخ هست که روز نهم واردی کربلا شد و خب این اما نامره همراه خودش آورد و حال چه بسا اون و اون قلامه و بله. الحمدالله ابن عبی محد آورد و عرضه شد و به این اعتبار یک اختصاصی امروز به عبدالفرزالعباس علیه السلام داره از یک بود و بود دیگری که به صلاح مربوط به امروز از عباس سلام علیه نقش داره در بله. این اینکه در عصر امروز تصمیم عمر سعد برای آغاز حمله و تمام کردن کار سپاه عبدالله علیه السلام انجام گرفت و تصمیم گرفت که این حمله انجام بده و لذا کار مقدماتی رو انجام دادند و امام حسین علیه السلام متوجه شد که به صلاح اینها قصدی دارن و لزاء ابوالفضل علیه السلام رو فرستاد برای عنوان نماینده خودش برای صحبت کردن با اینها و مهلت خواستن شب عاشورا که حالا تفسیری در این قسمت هست که چگونه این شروع شد و چگونه پی گرفته شد و از کنم که پرسش و پاسخی که میان ابوالفضل علیه السلام و سپاه دو به عمر صد رد و بدل شد درست. این, این رو اگر مدیش ارزید باشد این در بخشای بعدی از زبانتون خواهیم چند خیلی ممنون و متشکرم و از همه شما شنوندگان گرامی هم بسیار سپاس گذارم. شما. ای ستون قامت حسین ای بهترین پناه ایستادم روبروی قربتت از پس هزاران سال فاصله هنوز الغمه درد میکشد فرات درد میکشد و زمین میسوزد ایستادم و فکر میکنم به مشک آب که بعد از دست های تو بند بندش گسه است به قامت بلند پرچمی که بعد دست های تو شکست ایستادم در کنار تشنگانی که تو را آب خطاب می تو شرم آیم آب آبرت علم دار وشید لش آقا جان تو تا در راه بودی مادرت بود تو از راه آمدید مادرت بود بود بیاید ببرم ام برین مادرت فاطمه آمد عوض مادر مر آهای آی اخت آه اخ دا کنار من نشستی یه خواهشی دارم با جبر و منو من و فکر حرامی و جسارت من که رو و خودم از بالای محمل آوردم بردم من که پرددار محمل زینب بودم من که همه اهل بید به هم بزن من که همه ازم میترسیدن طرف خیمه نیومدن منو فکر حرامی و جسارت حرام فکر بدون من اصارت آی کنار علقم من ماندم من و تو دشتکو همه سمت حرام در فکر قارد آیا آی. به پیش پات دارم باغ لاله خوش آمد گویم شرم از تو مرا برادر شدم دل و گوش سه ساله از هاتون مقبول باشه انشاءالله امسال هم زنده ماندیم و داریم درک میکنیم تاسوعای حسینی رو انشاءالله که ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرماید دکتر محمد رضا جباری در روی اما نامه که ابن زیاد برای حضرت عباس علیه سلام را به سبب شم یا غلام فرستاد صحبت کردیم و مشخص شد که امروز چرا متعلق است به حضرت عباس علیه سلام اما قرار شد از محلت خواهی شب عاشورا به فرمه دخل بطیق از شبت که نقلی هست از فردی به نام سعد ابن عبیده که توری نقل میکنه در تاریخش بعضی از دیگر مبرخان دارن مثل بلازوری و مبرخان بعدی مثل خارزمی همسال اینها این سعد ابن عبایده میگه روز تو نقل باز نداره که روز نهم اما خب شواهد استفاده میشه که با عمر سعد برای خونک شدن پاها خونک شدن خودمون پاهامون رو داخل آب گذاشته بودیم که خب همین تیکر انسان قیاس بکنه برن حالی که در هر دلال سلام هست که از نوشیدن من کردن و این افراد شقی و ناجب و مرد اینچنین به آب دستسی دارن که برای خونوکی در اون هوای گرم پاهاشون رو داخل آب گذاشتن و میگه که همونطور که نشسته بودیم دیدیم که شخص اومد در گوش عمر آهسته گفت که ابن زیاد جوویریت ابن بدر تمیمی رو فرستاده و دستور داده که اگر همکنون با حسین نجنگی گردنت رو بزنه و ببر نزد ابن زیاد که می به محض اینکه که این رو گفت و مرسد بلند شد سلاحش رو به دست گرفت لباس جنگیش رو پوشید و بر برعصبی سوار شد و با به سپاهش اون جمله معروف رو فریاد زد یا الله ارکبی و عبشری تو بعض نخلاق و جنت عبشری که ای سپاهیان خدا برخیزید سوار شوید و شما رو بشارت باد مثلا به نعمت خدا و به خدا و این و بعد اینها دیگه سپاهش آماده شدن برای جنگ یک هم همه در سپاه دشمن افتاد و حرکتشون رو آغاز کرده به سمت خیام عبا عبدالله علیه السلام. بله. در اینجا دارد که عبا عبدالله علیه السلام مقابل خیمه خودش حضرت نشسته بود و به شمشیرش تکیه زده بود سر رو به زانو گذاشته بود و به خواب سبوکی فرو رفته بود. حضرت زینب سلام علیه ها اون صحنه رو دید که دشمن به یک جوششی افتاده سرصدای دشمن رو که شنید سراسی محمد خدمت عبا عبدالله علیه السلام ارز کرد که برادر جنایا سرصدای این دشمن رو نمی که اینها دارن نزدیک میشن به خیام عبا عبدالله علیه السلام سر برداشت فرمود همکنون رسول خدا صلی الله علیه و علیه پدرم امیر مادرم زهرا برادرم حسن علیه مستلام رو در خواب دیدم که به من گفتند که به زودی نزد ما خواهی اومد و به خدا قسم که نزدیک و شک نیست که اون وعده دیدار من واقعاً و بر حال پدرم، مادرم، برادرم نزدیک. خب این جمله رو ابوالعبدالله سلام گفتم روحیای صادقش رو بیان کردم ما واقعا خودمون رو الان ببریم در شد در همین لحظات دیگه در محبوب چند روزی است ببریم در اون صحنه و حال خواهر هم چون زینب سلام الله علیه ها رو تصور بکنیم با شنیدن این جمله خب زینب معرفت و بصیرتش بسیار فراتر از اینهاست و میداند اینکه ابوالفضل علیه السلام خبری که داد خبر صدقه رؤیای او رؤیای صادق منزاد ناله سردا زینب سلام علیه ها به صورت خود زد ناله زد و حال بیتابی کرد عبادل علیه السلام شروع کرد به دلداری و تسلای خاطر زینب سلام علیه ها و آرامش کرد فرمود که آرام باش که مبادا گریه تو و فریاد تو موجب شماتت دشمن بشه این سحن حال در مقابل خیمه عبادل علیه السلام انجام گرفت عباس سلام علیه متوجه این سهنده شد اومد خدمت امام حسین علیه السلام و ارز کرد که برادر جون دشکر دشمن درم میان به سمت ما و همداره میخوان آغاز بکنن امام حسین فرمود که برو عباسم برو نزد اینها و بپرس قصدشون چیه قصد اینها رو به دست بیار که مقصودشون از این حرکت چیه اونجا داره که عباس سلام علیه با 20 سوار سوار شد از جمله زهیر ابن قین و حبیب ابن مظاهر این فرماندهان شاخص و سرشناس و مخلص و شجاع عبا علیه السلام که حالا روز آشورا دیگه قصه ایست حرکت برد. اینها و شب جملات اینها اینا اومدن مقابل سفاه ابن سعد و اینکه این که چیه؟ چی در ذهن دارید؟ و اونها پاسخ دادن که از امیر ابن زیاد دستور رسیده که به شما پیشنهاد بکنیم که به حکم اون تن بدید و الا با شما خواهیم جنگید عباس سلام علیه فرمود که شتاب نکنید تمام برم نزد ابا عبدالله علیه سلام و ببینم که پاسخیشون چیه این باز تاعت و عبودیت عباس سلام علیه از جانب خودش هیچ سخن نداره من خیلی وقت ذهنم میرسه تشبیه بکنم حال ابل فضل عباس علیه السلام با عبا عبدالله علیه السلام رو به حال امیر با پیامبر سلام علیه. در کربلا هیچگاه ندارم ابل فضل عباس مقدم بر امام حسین حرفی زده باشد یا خلاف اون حضرت یا مگه زمانی که امام حسین نظر خواسته است در حال امیر المؤمنین و پیامبر هم بازه زمانه حیات پیان اکرم در صحنه های جنگ در مشورت در جنگ بدر اوهود خندق هم سالالن ها دیگران خب نظراتی دادند و به خصوص بعضی از کسانی که بعدها متولی امور خلافت اینها شدن نظرات ناراحت کننده ای مثل جنگ بدر اما از امیرل یک کلام شنیده نشد سکوت محص فهمن فهمن. و تابع مص نسبت به پیان همین درس رو عباس از پدر گرامیش اممرل به خوبی فرا گرفته و گفت برم با برادرم مطرح کنم با عبدالله علیه سلام و آمد خدمت امام حسین علیه السلام و جریان رو مطرح کرد خب اینجا دو صحنه در مقاتل نقل شده بلده. یک صحنه این که عبدالعباس سلام علیه امد خدمت امام حسین به جواب گرفت یک سحنه هم در اون فرصت این بزرگوارانی مثل حبیب مثل زهیر فرصت مختنم شماردن اونجا شروع کردن به گفتگو و نصیحت به سپاه دشمن که گفتگوی ارز کنم که زهیر آمده که حبیب به زهیر ابن قین از کنم که دارد که با حبیب صحبت میکردند حبیب به زهیر گفت که اگه مایلی با اینها سخن بگیم نصیحتشون بکنیم زهیر گفت که تا آغاز کن که تو چون پیشنهاد دادی تو آغاز کن، حبیبم رو کرد به سفاه ابن سعد و نصیحتشون کرد گفت به خدا قسم فردای قیامت نزد خدا شما بد مردمانی خواهید بود، بد مردمانی هستن کسانی که فرزند پیامبر و خاندانش رو، مردان پاک این سرزمین رو که سهرخیز و دائم و ذکرند، اینها رو به قطر برساند، اینها در فردای قیامت نزد خدا بد مردمانی هستند. به نام عزرت ابن قیس آدم بی ادب قسیل قلبی بود از سپاه دشمن شروع کرد متلک برانی بلد. و به حبیب گفت که تو خیلی از خودت تعریف میکنی مثلا خودتونو پاک میدانید و اینها خیلی از خودت داره تعریف میکنی اینجا زهر گفت که بله او پاک خداوند او رو تسکیه و هدایت کرده و پاکش کرده بعد اینجا زهر شروع کرد به نصیحت کردند یعنی زمام رو در دست گرفت و گفت که تو رو نصیحتت می کنم از خدا بترس از کسانی مباش که به گمراهان برای کشتن پاکان کمک می کنند و باز تأثیر نکرد ازر باز شروع کرد به صلاح شماطت کردن به زهیر و اینکه تو چه قبلا با این خاندان نبودی شیعی اینها نبودی چطور شد الان دم از تشیع حسین میزنی به و زهیر گفت که بر حالا اینطور باشه گرچه ثابت نیست اینجا نسبت عثمانی بودن به زهیر داد گرچه این ثابت نیست به لحاظ تاریخی اما زهیر گفت که اما من از اون کسانی نیستم که دعوت کردند از حسین و شما دعوت کردید و زیر دعوتتون زدید من در راه سخن حسین رو شنیدم و لبایج گفتم این یک صحن است که گفتگوی نصیحت آمیز اصحاب ابوالدلال سلام منشون میده از هر فرصتی اینها چه قبل از آشورا چه روز آشور استفاده می کردن این که برحال بله هدایت کنن اونها رو و صحنه دیگر هم که اول عباس صلی الله علیه اومد خدمت امام حسین علیه السلام و ارز کرد که قصد اینها چنینه امام حسین علیه السلام فرمود که برو نزد اونها و اگر می تونی امشب رو مهلت بگیر و بسن به خدا که من دوست دارم تلاوت قرآن رو و نماز رو و دعای بسیار رو استغفار رو حضرت عباس سلام اللہ علیه برگشت مقابل سپاه دشمن و عمر سعد بود شمر بود به حجاج بود از کلم که قیس بن عشقس بودین سران و فرماندهان بودن و گفت که به سلام عبا عبدالله علیه سلام از شما میخواد که امشب رو برگردید تا درباره مسئله بیندیشد چرا که ما هنوز راجبی مسئله با هم گفتگوئی نکرده با این بیان این, این باز نشانه درایت و زیرکی ابوالفضیل بن باسلی چون اگر بحث عبادت و اینها رو به اونها مطرح می‌کرد چه بسا به هر حال اعتنا نمی‌کردند به با... موضوع نماز جماعت و تیراندازی این قصه بود اما با درایت فرمود که امشب رو برگرد تو ما بررسی بکنه فردا به شما جواب میدیم بس. و تو این مرحله یک اختلافی افتاد بین اینها عمر به شم گفت که نظر تو چیه؟ شمر گفت که تو فرماندهی تو نظر بده و لذا رو کرد به اطرافیان از این فرمانده هایی که بودن گفت که نظر شما چیه؟ اونجا دارد که امر ابن حجاج زبایدی گفت که سبحان الله به خدا قسم که اگر اینها ترک و دیلمی بودن و کافر بودن شما درخواستشون رو رد نمیکردی سزاوار بود چین درخواست رو بپذیر چرا سد به از خاندان این به نشون بده که با علم به اینکه اینها از خاندان پیغمبران مقابل اینها استادن و قیس بن اشعث هم باز تأیید کرد گفت که درخواستشون بپذیرگر گرچه میدونم فردا اینها با تو خواهند جنگید این محترم گفت و عمر سعد گفت اگر من میدانم میدانستم و یقین داشته باشم که اینها چنین میکنن فردا امشب رو مهلت نمیداد نمیدم نمی بهشون اما به هر حال مجموعه این مشورات ها به اینجا شد که مهلت رو دادن به عبی عبدالله علیه السلام و اون شب دیگه حال در خیمه عبی عبدالله علیه السلام و یاران اون حضرت چه خبره این دیگه بحث است خیلی ممنون و متشکره شده تو بخش بعدی من سؤالم رو در بروری تلیار سپاه دشمن میخوام بپرسم. و اینکه یاران حضرت چقدر بودن قبل شب عاشورا و شب عاشورا به چند نفر رستن رو بیشتر صحبت کنیم خیلی متشکرم. اطر گل یاس بگو ای دل من از آیه احساس بگو ای دل من وقتی که به آب می با لب خوشت یا حضرت عباس بگو ای دل من عباس کلمه است که در ردیف همه غزلهای حسین است و نامش همه جا تولی نام حسین تاسوعا روز ماه است و آشورا روز خرشید به خون نشسته درست کنار هم و این ماه عباس است که نور خود را از خرشید حسین می خیره. کنیم واقعا که در روز تاسوعا توفیق خدمتگذاری به شما عزیزان رو داریم و خیلی ممنونم از همراهیتون ما گفتگو میکنیم با حجاترستان و مسلمین دکتر محمد رزا جباری و بگونه وقای تاریخی امروز روز تاسوعا رو در سال 60 هجری بررسی میکنیم آیه جباری رسیدیم به اینکه درباره در باره تعداد سپاه دشمن صحبت کنیم حالا نقل های مختلفی هست برایش. روش هم بفهمید که چه تعداد بودن و اینکه یاران حضرت چه تعداد بودن چه قبل از شب آشورایی که حالا عبدی خدافزی کردند و رفتند شمانه رفتند در حقیقت و عبدی ماندند من ارز کنم که نکته ای که الان شما اشاره فرمودید آیا کسی از جبه عباد الله جدا شد؟ یا خیر این ارتباط داره با بحث تعداد سپاه عبی عبدالله علیه السلام و خب دو بحث برای میشه که تعداد سپاه چقدر بودن که اگر کسانی رفته باشند در نهایتن مثلا هفته دو, دو نفر مانده اند و آیا چند چیزی قابل تصور هست که کسانی تا اون لحظه با عبی عبدالله علیه السلام باشند با وجوده سحنه مختلفی که تو مسیر پیش آمده نسته. و از ورود به کربلا پیش آمده تا شب آشور <موسیقی> تعداد سپاه دشمن خب با این وجود کسان شب آشور رو بمونن و شب آشور را رها کنن برن این قابل تصور هست یا خیر قبل از این که آمار رو بکنم اشاره به این نکته میکنم که بحث ترک سپاه عبی عبدالله السلام در چنی شبیه در شب آشورا در متون اصلی ما نقل نشده جایگاهی نداره نهایت سندی که برای این مسئله میاد که از قول سکین خاتم سلاماللی نقل شده که اون شب ده نفر یا 20 نفر همطور رفتن بیرون از خیم عبی عبدالله در تاریکی و حضرت گفتن که خب این ها با من کار دارن شما آزادید که برید و اینها رفتند و بعد چرا روشن شد معلوم شد که کسانی که منده اند این نهایتش برمیگرده به کتاب اصرار شهادات مرحوم ملاغ دربندی دوره قاجار دارست. و بعد از اونم در آثار مثل تذکرات شهاده یه میرده های بلده کاشان این آمده و ابت نقلش که نهایتش به یه قرنونیم پیش از این برسته دارست. و اون که روز که هست در منابع ما این هست که اصر آشورا یک نفر به نام زهحاکبن عبدالله مشرقی بود که به سباه عصر با بدالله سلام جدا شد و ترک کرد او گفت که من با شما شرط کرده بودم که اگر کار دشوار نشد، و به سختی نینجامید همراه شما باشم و دیگر الان اجازه بدید من برم و هزت اجازه داد و این رفع اتفاقان از حاکب ابن عبدالله مشرقی یکی از راویان کربلاست و حالا گرچه خودش از این فیض از این باز ماند اما از این جهت برای تاریخ خوب شد که با یک شاهد اینی از جبهه امام حسین علیه السلام خوب انم گنج به ام اون خب تا اون لحظه آخر بود همراه اما به لحاظ اعتقادی گویا در اون درجه نبود که بصیرت لازم نسبت به امامت حضرت رو داشته باشد و بماند تا لحظه آخر مم. اما خب هم که تا اون لحظه آخر با حضرت هست و اینها قول او رو قابل اعتماد میکنه و یکی از راویان عینی کربلا است و روایت متعددی از اون نقل شده و در جای جای حوادث کربلا استناد میدن و خب طبیعتاً در گزارشگران حادثه کربلا کسانی که شاهد صحنه بودن قول اینها از اعتبار بیشتر برخورد دارست که با واسط نقل میکنند. کنند و این رو در عصر آشورا از کنم که داریم و اما در شب آشورا قابل اثبات نیست که کسی از همراهان عبی عبدالله علیه السلام سحنه رو ترک کرده باشه و با اون چه که در نقل ها آمده این که سلام عبدالله که اون جملات رو فرمودن که حالا مجال باشه بعد عرض می‌کنیم که چه صحنه تکرار شد بی عبد الله السلام بیعت رو برداشتن گفتن که اینها با من کار دارن و شما آزادید که برید اولین کسی که اظهار کرد در مقابل بیابد عبد سلام السلام اظهار وفاداری کند حضرت ابوالحسن ابواس علی السلام به منو به تاریخی که امشب هم به این اعتبار تعلق به عباس پیدا می‌کند از این جهت که او زمامدار اظهار وفاداری نسبت به ابی عبدالله علیه السلام در چنین شبی بود و بعد به دنبالش برادران از عباس و بنی هاشم و در میان اصحاب ابی عبدالله علیه السلام کسانی مثل به اصطلاح زهین سخن گفتند کسانی مثل حبیب سخن گفتند سخنان حماسی که حالا عرض کنم اون الان چون بحث آمار به اصطلاح اصحاب ابی عبدالله علیه السلام است خوب ارز بکنم که تعداد سپاهیان امام حسین علیه السلام متاسفانه در منابع مختلف نقل شده درسته. و همین حالش هم وقتی که شما به صلاح نگاه کنید اسامی که در بالای بخش مطفن اصحاب عبیردالله علیه السلام آمده می‌بینیم که خب تعداد بیشتر هست از تعداد 72 نفر و این آن... نقل 72 نفر چقدر قابل قبول هست؟ بله این ازم کنم که نقل 72 دو نفر نقل سی بسیاری از مبرخان این رو نقل کردن و با شواهد تاریخه هم سازگار این که ده. مشهور شده است به جا مشهور شده مثل بعضی مشهورات نیست که ریشه ای نداشته باشه 72 نفر به جا مشهور شده به لحاظه منابع متعددی که از کنم که صفاهر عبداللاله سلام رو نقل کردن در این اینو باید توجه کرد که بعد یک تفکیکی قائل شد اصلا یکی از علل این که اختلاق وجود داره در ارتباط با تعداد یاران ابی عبدالله سلام خلتی است که صورت گرفته و اون خلد بین تعداد یاران حضرت هنگام خروج از مکه است بله و بین تعداد یاران حضرت هنگام ورود به کربلا به تعداد یاران حضرت هنگام روز عاشورا و همونطور بعد شهدای مجموعه شهدای کربلا درسته که شهدای کربلا که خب منحصر به همون هفته و دو نفر روز عاشورا نیستن مثلا بعضی مسلم هم هستن دارسته. که مجروح شدن بعدا به زن یا مسلم قیس مصحر مسهر امثال اینها که لحاظ کنه خب یک این یکم اینکه گاهی نام یک نفر با گاهی به لقب آمده گاهی به کنیا آمده گاهی به اسم آمده این نکته دوم و نکته سوم که بحث آمار اصلا کلا در تاریخ چه مشکلی داره که به صلاح یک معیار و منات و طریق و مسیر قابل اطمینان برای آمار در جنگ ها و غیر جنگ ها وجود نداشته درسته همیشه حدود مطرح همی شده تعداد یاران امام حسین علیه السلام که مشهورترین قول هفتاد و دو نفر هست بله. این رو کهانترین مقتل منبع تاریخی که همون مقتل ابو مخنف باشه که مرحوم شیخ مفید نقل کرده اون رو در کتاب ارشاد تبری نقل کرده اون مقتل رو به واسطه شیخ مفید و تبری ما دسترسی به اون مقتل داریم او به نقل از همین زحاک ابن عبدالله مشرقی که اشاره کردم که شاهد عینی حادثه است و عصر آشور از امام حسین علیه سرم جدا میشه و فرار میکنه رو جای بسته بود و میره عصب رو میگه و فرار میکنه تغییشم میکنم بهشم بعضی هم قبیله بودن دو اینها واسطه میشن و جان به سلامت به در میبره این نقل میکنه بنابرا نقل ها این به این اعتبار که کسی است که تو متن سپاه حاضر عبدالله علیه السلام هست و دقیقا آمارش میتون قابل اطمینان باشه نایست. ابو و مخنق از او هفتاد و دو نفر رو از کن که نقل میکنه که سی و دو نفر سواره و چهل نفر پیاده دیگه غیر از این نقل هایی که وجود داره من فقط عدد از می کنم قائل رو دیگه اشاره نمی کنم مثلا بعضی صد نفر رو ذکر کردن گاهی تا سی صد نفر ذکر شده عرض که بعضی کمتر از هفتاد نفر ذکر کردن بعضی 61 نفر ذکر کردن خارزمی مثلا صد و چهارده نفر ذکر کرده سبت ابن جوزی در نقلی به صلاح نقلی که از امار دو نیست او منصوب میکنه به امام باقر علیه اما قابل قبول نیست به لحاظه این که امار دوهنی قدش قابل قبول نیست 145 نفر رو ذکره که 45 نفر سواره و 100 نفر پیاده و ابن حجر حیتمی 82 چند نفر رو ذکر می و حتی از یک نقل مسعودی برمیاد چیزی قریب به 600 نفر بله. استفاده می از نقل مسعودی که اینها که میگن گن ده تا ده تا اون شب رفتن بیرون چراس اعتماد به نقل مسئول که قابل اعتمادش متفرده مسئولی در ضمن 4 بدون سند چنین چیزی مطرح کرده و احتمال تصحیف هست که عدد دیگری بوده و تصحیف شده به درسته. به اصطلاح 500 نفر و 100 نفر که کنار هم میاره و بنابر این در میان اصحاب ابوبدلال السلام رقم هفتا دو. دو نفر رقم است قابل قبول همطور که ذکر کردم ابو مخنف و تعداد زیادی از مبرخان که تبری باشه مرحوم شیخ مفید باشه بلازوری باشه دینوری در الاخبار اطمال باشه ابن عصم در کتاب الفتوح قاضی نعمان تمیمی مغربی در شرح الاخبار و همینطور ابن مسکوی در تجارب الامم و بسیاری از مبرخین مثلا از بزرگان ما مرحوم تبرسی صاحب اعلام الورا در کتابش نقل میکنه از سنی و شیعه عبدت 72 رو نقل کردن که حال این با اون عدد سپاه حضرت هم که از مکه با حضرت خارج شدن که بعضی گفتن هشتاد و دو نفر بودن نزدیکتر و سازگارتره زمن که باید توجه داشته باشید در منزل زباله در مسیر منزلگاه بود به نام زباله اونجا خبر شهادت مسلم رو بعضی گفتن در اونجا گفتن منزل قبل سعلبیه اونجا تعدادی جدا شدن از حضرت چون به تصور این که حضرت به حکومت میرسه و کوفر به دست می گیره، همراه حضرت از مکه را افتاده بودن وقتی که خبر شهادت نمانده امام حسین علیه السلام در کوفر رو شنیدن در اونجا و براشون یقینی شد که دیگه ابن زیاد مسلط بر کوفر شده، اونجا بعضی جدا شدن که میشه حد زد که هفتشته نفری بودن هم اینهایی که بر حال اختلاف به این آمار هفتاد و دو و هشتاد دویی که طبق نقلهایی از مکه همراه حضرت خارج شدن درسته. این را ارز کنم که در ارتباط با سپاه همید خدمتون از کنم پیه یه لحظه اشاره کهید به روایت احل سنت من الان بیه سآل نمیدارم چقدر اینجا جاشت یا نه. میخوام بپرسم که اصلا چقدر در روایت اهل سنت واقعی کربلا و آشورا اومده و وجود داره اتفاقا به اصلاح یکی از مهمترین منابع ما برای تفاصیل مربوط به حادثه کربلا همین متون اهل سنت هست تعداد زیادی از این آثاری که من ازش نام بردم از اهل سنت از تبری بگیریم و بلازوری و الاخبار و, و از کنم که مروج زهب مسعودی و اینهایی که به صورت خاص یا مقتل نوشن یا در زمن آثارشون نوشن بسیارشون از اهل سنت هستن چون حادثه کربلا از دو منظر قابل اتمام برایشون بوده که اینکه به عنوان یک حادثه مهم تاریخی است خب که تبریک تاریخو نقر میکنه دیگر حوادث قیام ها امثال اینو نقر با قاعدتا به حادثه کربلا منظور دوم این که امام حسین علیه السلام یک جایگاه خاصی نزد اهل سنت دارد ما بحث وهابیت خمیس رو امروز کاملا جدا بکنیم از اهل سنت اهل سنت در تاریخ انات به امام حسین من فقط اشاره به هم یک نکته بکنم در میان علمای اهل سنت سویوتی داریم که اسمش بسیار معروف بسیاری از آثار تطمین کرد از علمای های اوواائل قرن دهم از نه و ده و سال و یازده و خب آثار فراوانی داره کتابی داره با من تاریخ الخفا شدهگان عزیز مع ریی به اون کتاب بکنن در زیله و سادسه کربلا و دوره حکومت یزید اشاره میکنه به شهادت ابی عبد الله علیه السلام به دست سپاه یزیدی و لعن میکنه یزید رو و بعد میگه قصه شهادت حسین به اصلاق قسی است که ذکرش طول میکشد و قلب من تحمل ذکر این قصه رو نداره لا تحمل قلب ذکرها و این نشون میده که به هر حال امروز بسیاری از اهل سنت مجلس روزه می گیرن میکنن و خب به محسن سبت پیانبر اکرم بود اون توصیه های پیانبر راجب به محسن به امام به عنوان امام شاید مفترض و تاعه زعیم سیاسی ممکن نگاه نکنن اما به امام به عنوان امام معنوی و قدیس و متحر و کسی که جزوه به صلاح اصحاب کساس و آیه تطیر درباره بارش پیامبر شده درباره او اون توابیر بلند داره با من. سید در شباب اهل جنه از اون حضرت و برادرش یاد کرده می بوسید امام حسین رو لبهای امام حسین رو اکرامش می‌کرد. این همه در متون اهل سنت فراوان آمده درسته. چه در متون اون دسته از علمایشون که یه مقدار متعصبند مثل ابن سعد در اتباقات الکبرا بله. یا ابن عساکر در تاریخ مدینت دمش چون هایی که مقدار منصفتر مثل تبری و ستویوتی و ام خیلی ممنون متشکرم آی جباری حالا تو بخش بعدی ان شاءالله راجع به سپاه نزید و سپاه نصار هم بیشتر صحبت خواهیم کرد خیلی ممنون بنبرم بوم مدال عشقی یکی عالم حسین جان دیارم هر نه درد ملسا قره پرچمه حسین جان سواست و تاسوعا یعنی عباس و عباس یعنی برادر یعنی ادب یعنی وفا یعنی ما یعنی پیکری بیست در کنار شریعه فرات و به آن هنگامی که او از برادر از میدان خواست و برادر به او فرمود تو صاحب نوای منی اگر تو نباشی چه کسی برایم باقی میماند؟ و بیادار گفته عباس را که به برادرش عرض کرد سینم تنگ است و دلم از این دنیا سیر میخواهم از این جماعت منافق خونخواهی کنم و بیادار گفته برادر را که فرمود ابوسن کودکان را درسترند فرات بر خود می بالید که تصویر عباس را در بغل گرفته است موجها در کف دست مبارکش تزرع می کنند و برای رسیدن به آستان لبهایش دست نیاز دراز می‌کنند اما اما او او در آینه آب خیره شد و برخلاف خواسته فراد خود را در آن ندید خورشید را دید که کویر لپایش از شدت آتش ترک خورده است. خورشید را دید که قریبانه آمدن ماه را انتظار می‌کشد. بچههای عطشناک را دید که از شدت تشنگی بیتاب شدند. مگر می‌توان این همه آب را دید و آب ننوشید. نه. او اصلا آب ندید تا بنوشد او خورشید و ستارگان تشنه را دید آب را بیتاب کرد و داغ بر دل فرات گذاشت این غیرت هیدری عباس است که میگوید حسین تشنه باشد و عباس سیرا هرگز هرگیست <تصفيق> ابا عبدالله روز آشرا بالا سر هر شهید که آمده با آرامش نشسته چرا چون عباس زنده بوده موازه به خیمه ها بوده وقتی اومد برای سر علی اکبر براسر سر مسلم ابن ببینم براد حسین اینکه وقتی اومد کنار عباس یه نگاه میکرد به علقمه برمیگشت یه نگاه میکرد به خیمه نمیبینی بی سپاهم قریبم بی تک نمیبینی بی سپاهم قریبم بی دلت می آید که بگذارین برادر را بید برادر دلت می آید که بگذارین و بین الخیامه متقدتمو می دونی یعنی چی؟ یعنی حسین حیدگاه به خیمه می کرد دشمن هم نکنه چون دیگه عباس نبود علی اکبر که اومد بالا سرش عباس بود با وازم خیمه خودشو رسون بالا سر عباس دشمن داره نگاه میکنه تا نشست یه وقت یکی فریاد زد به این هزار نفری که در رفته بودن گفت برگردید برگردید جان دادن عباس و تماشا کنید هنوز از سمت شریعه هنوز از سمت شریعه رسد این آبا رسد این اگر دستش هم قلم گردد بر ندارد دست, دست امامش اگر دستش هم قلم گردد بر ندارد دست, دست اومد به طرف خیمه ها حالا اینجا کی بره جلو زینب وایسوده، ساجیره وایسوده، رباب وایسوده، زنا وایسودن چون القمه دور بود پیدا نبود صحنه گفتن چی شده؟ چرا حسین تنها میاد؟ نکنه عباس ثوری شده کی جلو بره؟ اینجور موقع بچه کچیکا رو میفرستن جلو دختر کوچولو رفت جلو بابا بابا اینانم یال <تصفيق> بابا عمود چی شد بابا عمود نمیخوایم بگو عمود چی شد گاهی زبون نمیشر خوادم این خبرها رو بده چطور بگه بیداداش شدم رف رف عمود خیمه عباس و خابون یعنی خیمه دیگه سالار نداره دیگه منتظر نوادید زیمه ها خون شده هرم نیست دیگر توانه نیست رخصت فرمایی دکنون به میدان بروم عباسه تو علمداره نشگره میدن مولای من دیگر کسی نمانده تا من برایشان پرچم نگهدارم. ابتدا برو و جدشا حساب بر این قوم تمام کن بگو که جنگ جای خود بستن آز بر کودکان و زنان شرط انصاف نیست تا. بلّه مولای من او <تصفيق> یا برای یاب من آمده بگرین تو نیامده میخواهد سخن بگوید آرام باش به ما این حسین فرزند رسول خداست شما یاران برادران و عموزادگانش را کشتید و او را با کودکانش تشنه و تنها رها کرده اید تشنگی جگرهایشان را با آتش کشیده جوه آب برنن برسانید و نرزنان و کودکانش از تشنگی جان میدهند به باشید که من حجت را برای فردای قیامت بر شما تمام کردم و خدا خود میداند که با شما چه کنند آب می خواهند آب باندر از آنیم ای فرزنده بوتراب به برادرت بگو اگر تمام روی زمین بدل به آب شود بدل اختیار ما باشد ما قطری به شما نمی داریم مگر این که با یزید بیعت کنید حیحات که مولایم حسین چونین کنید مولای من حسین جان سخن در آنها اثر نمی کنه می برادر من مشتاق نبر با دشمنان تو هستم عباسم اگر تو بروی دیگر کسی برای من باقی نمی باشد اگر چنین میخواهی برو امو جان امو جان ما آب میخواهی دهانم خوش شده جل آب برای ما بیاورد امو جان عباس آیا برای ما آب بیاوری آیا میتوانی پیش از نبردرت یک محش آب برای احله هرم بیاوری روی دیده عزیزانم به خیمه بازگردید همینک برایتان آب میآورم ابوجان این وشف را بگیرید یجن امید خاندان حسین برو این بس پربار و وعایت شده ای باه بری هاش بازگرد به سرس براز براز سر و جانم به فدای قدمت بمان بمان در کنار برادرم او مهلال به فدای بازو مانم که انقریب برخواهد موز خواهد زر بمان بمان در کنار ملا دلهای های نازک این کودکان به امید داشت پای اول تو عشق کرده تنها بهانه زیستن این کودکانا نوی کنار فرات را بنگر او کی سامت, سامت. خوری، کمی دو مهلن. یکی بیرون جا نخود مهلن. سامیت، من نمی‌خوام نه کوب تو بدو. برادرم سامیت، تو سامیت آخرین بچه‌ام. تو چی جوش می‌کنی؟ کنار بروی. فرزندان رسول خدا تشنه، کودکان و زنان حرم جگرشان سوخته از تشنگی و بلا. کنار بروید. عسام گلیگونه تو خف میگویید؟ می‌بینی او مهلا، می‌بینی می می چه شکلی به سواب آمده؟ می‌بینی چطور چی خف میگویید؟ کنار بروید. آقایم عباس دشمنان را یکی یکی پشت سر میگذارد. و به این سو میآید. عباس، مش نیا تا کنارش برو. صدای اموجان ال آتش کودکان را نمی‌شنوی؟ بیا سربرم عباس. یا این آب زلال از آن تو و کودکان سامر فرزنده کسی تو را نمی بیند صدایت را نمی شنود آه ما مادرها جان به عذایتا نشسته شمشیرهایتان را آرام در هوای پیرابون عباس بکرخانی که هزار امید در کام کودکان حرم حسین ابن علی به انتظار نشست سامت برادر چگونه فوسو قابل نمیجویی چگونه زبان باز باقری نمیبینی خواهرم سامت زبان گشوده از فرد این همه مصیبت که پسر پیامبر خدا در کرب و بلا میگذشت نائله او مهلان بروید کنار نه. سربرم تشنه است میخواهد آب به خیمه ها برساند من هم میخواهم بروم از هر این الله دفاع کنم کجا ایرادی سامت تو نمیتوانی نیر رسیدی به این مره دیر تو فقط میتوانی نظاره کنی این خدمت شما عزیزان هستیم و انشالله که عزاداری هاتون مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه. یک بخش دیگه توفیق هست تا خدمت استاد جباری باشیم و از زبانشون وقایع امروز رو بپرسیم. آیه جباری حالا تو این یه بخش سه مطلب رو من بگم که حالا قصد داشتیم بهش بپردازیم تا چقدر شما زحمت بکشید. یکی تعداد سپاه دشمنی که فکر میکنم خلاصه بشه بهش اشاره کرد. بخش بعدی اینه که لغب سقا رو سر از کجا آمده کی به حضرت حد باستاده و آیا بسنده میشه فقط به روز آشورا و آب آوردن حضرت در اون روز یا نه و اینکه کیفیت شهادت حضرت شده بله از درباره تعداد سپاه عمر سعد هم همطور که درباره تعداد یاران عبی الله علیه السلام اشاره کردم که اختلاف آمار وجود داره و هفتاد و دو نفر رو ترجیح دادیم با توجه به پسویت بله. نقل ها درباره سپاه عمر سعد هم همطور با اختلاف آمار مواجهیم من فقط فهرست سری از ارزم کنم بدون ذکر منبع اونها که مجال نیست مثلا 22000 هزار نفر آمده 28000 هزار نفر آمده 56000 هزار نفر نقل شده 35 هزار نفر نقل شده بیست هزار نفر نقل شده شش هزار نفر آمده سی و یک هزار نفر سی و دو هزار نفر. عرض کنم که یا هفتده نفر به هم تر طیف چقدر آشفتگی وجود داره و گویم ملاک معیاری برای آمار نبوده یا به اعتبارات مختلف این آمار هم شده چراشون سپاه ها اومرصد به تدریج تکمیل شد تا روز شش محرم هم روز ششم تقریبا دیگه کامل شد این سپاه. اما در میان این آمار اونی که قابل اعتماد هست ما طبعا در تاریخ هم مثل دیگر محبرها مثل کلام و تفسیر و امثال اینها به زراغ نقل معصوم بریم در درجه اول ما دو روایت داریم مرحوم شیخ صدوق این دو روایت رو به همدلله از امام باقر به امام صادق علیه السلام در امالی خودش نقل کرده و به دنبال مرحوم شیخ صدوق کردن که عدد سی هزار نفر است و این 30000 برهان عددی قاابل زیرفته شده است در میان علمای ما بله اما درباره لقب سقاک اشاره فرمودید خود این لقب رو ابوالفضل عباس سلام الله در رجزهاش داده درسته در رجزهای اون حضرت که به چند رجز از اون حضرت نقل شده یکیش این رازی که لا ارهب الموت الا الموت و زقا حتی و اورا فی المسالیت لقا نفسی لنفس المصطفى الطهر بقا انی انا العباس اغدو بسقا من از کلام که جان من فدای حسین که برگزیده پاک هست و من عباس هستم و هر بامداد کارم سقایی است آن روز که با شر روبرو شوم ازش از شر نمی حراسم. خب این لقب رو در رنجت ها حضرت داد و عملا هم در حداقل در کربلا در دوم و ثابته که این کار رو وزیطر انجام داد در یک نوبت موفق شد در یک نوبت متاسفانه به شهادت حضرت انجامید درو نوبتی که حضرت موفق شد این کار رو انجام بده خب میدان بنابر نغل موبرخان تاریخ من آب و دستور خلیدانه و ناجوان مردانه ابن زیاد برای من اعاب بلحرم حسینی روز هفتم بود که درسید به کربلا و هفتم من آب کردم. اینکه آیا همون روز یا شب شب هشتم که خب شاید به به تدبیر شب بیشتر قابل قبول باشه که بله. برای تاریکم استفاده کرده باشم هسته با سلام علیه حرکت کرد برای به صلاح آباوردن بنابر نقل ها دارد که اون حضرت به همراه سی سوار و بیست پیاده یعنی مجموعاً پنجاه نفر با فرماندهی عبدالعباس علیه السلام حرکت کردن سی سوار و بیست پیاده بله. تو بعض از نقل ها هر کدوم یک مشک داشتن بنابرای پنجاه مشک پر کردن بعض نقل کمتر از این رو زکر کردن رفتن برای به صلاح آوردن آب حمله کردن تعداد کسانی که مبکل بر شریع فراد بودند، بنابر نقل های قابل اعتماد 500 نفر بودن اون نقل چار هزار نفر که الان مشغورم شده که چار هزار بر شریع بودن اون در یک نقل ضعیفی هست که حالا اشاره میکنم که اون قابل اعتماد نیست ما خوب قدر متعقن 500 نفر حداقل اون قسمت نزدیک شریعه که حال خیام امام سلام نزدیک به اون قسمت شریعه بود در اونجا ممکل بودن خب پنجاه نفر مقابل 501 یک به ده بانه. اما شجاعات حضرت سلام علیه و یاران اون حضرت موجب شد که اون حضرت آمدن جلو این امر ابن حجاج زبایدی که موکل بر شریعه بود آمد و پرسید که هستی چکار دارید که اونجا ناف ابن هلال که جز اصحاب حضرت بود بله. گفتگوی داره با این امر ابن حجاج و اون من میکنه به اصلاح به این جد حتی به این میگه که از این آب بنوش میگه من قطری از این آب خودم نمی نوشم در حالی که مولایم حسین از خنان که تشنه است و از کنم که در اینجا عبدالفت سلامالالی دستور حمله میده اینها حمله میکنن به صلاح به سمت شریعه میرن و حملات اونها رو دفع میکنن موفق میشن که مشکاشون رو پر بکنن تعداد از اینها دفت حمله کردن تعدادی از مشکا رو پر کردن رو برگشتن و آب رو رسوندن به خیمه ها مرحوم شیخ صدوق شبیه نقل درباره علی اکبر نقل می کند با همین سی سوار و بیس پیاده و اینها که به نظر می که جریان و جدایی نباشه از جهت جزئیات نقل شبیه هم هستند و قائلتاً علی اکبرم باید در این جنب و رو روح بوده باشه بلیسا به این اعتبار چه به با اون حضرت استناد دادن. این یک آباوردن بود در شب هشتم یا روز هفتم یا شب هشتم و بعد از اون تا روز آشورا گزارشی نداریم در آوردن آب یک گزارش داریم در باره این سلام عبا در همون قسمت پشت خیام هیچده قدم حضرت برداشتن دورتر رفتن و جایی رو کندن هفت کردن آب بسیار گوارا و خوش گواری آشکار شد به اصحاب دادن نوشیدن و دیگران که بعضی احتمال بوده این که این عادت بوده باشه عباد الله این صحنه رو برفن مثل این که شب مکان و جایگاه اصحاب در بهش بهشون نشون داد از خرق عادت استفاده کرد، اما بنای بر خرق عادت نبوده ولی خب اگر خرق عادت بود که چیز از سحنا دشمن نمیمان در رست. کبر بنابراین کار طبق روال طبیعی پیش بره اما خب در صحنه‌های های امام برها چشمی این گاهی می آمدن معصمون یه نقلی همین چنین داریم برسته. که حفری کرده حضرت به آب گوارا و الله گفتن به اصلاح اون آبی که گاهی در نتیجه حفر به دست می آمده آبی شور بوده و چندان مثلا نمی شده برای نوشیدن استفاده بشه این یک نکته اما درباره روز آشورا و حرکت حضرت عباس سلام علیه برای آوردن آب خب اون نقلی که قابل اعتماد هست به مرحوم شیخ مفید اون رو از کنم که نقل کرده و تبری هم نقل کردن و قابل اعتماده اینکه همراه امام حسین علیه السلام هر دو با هم حرکت کردن برده. حضرت عباس و امام حسین با هم سر تهیه آب بر و مشک برداشتن و حرکت کردن به سمت شریعه اونجا دارد که به اصطلاح وقتی که نزدیک شریعه رسیدن دشمن حائل شد بین امام حسین و بین حضرت عباس سلام الله علیهم و در اون لحظه تیری به ابوالدلال سلام به نزدیک گلوی حضرت اصابت کرد و خون جاری شد و حضرت خون‌ها رو عرض کنم که در اون لحظه برداشت و به اون فردی که به اصطلاح تیر رو به سمت حضرت پرتاب کرد که فردی از بنی دارم بود نفرین کرد درباره امام حسین که خداوند داد تشنه کن و در تاریخ دارد که اون فرد به اصلاح مکرر در اثر نفرین امام حسین علیه السلام آب می نوشید و سیراب نمی‌شد. اصلا اینکه سیراب نمی‌شد که این در چند صحنه در کربلا این وضعیت تکرار شد و بعدا جزو عذاب و عقوبت کسانی است که به حال به خصوص درباره آب یک موذه گرفته نسبت به اهل بیت علیهم السلام لذا امام حسین به خاطر این جراحت برگشتند تجدید قواه بکنن دشمن رفت به سمت ابوالفضل ابوبکر علیه السلام و محاصره کرد و این که ابلفرز آب رو و قاعدتا با توجه به حرکت حضرت و شجاعات ابلفرز قاعدت این رو بعد انجام داده باشه و هنگام برگشت محاصره کردن حضرت باصر و خب اون جریان معروف شهادت حضرت که کمین کرد خوکیم ابن توفیل در پشت نخلی و در یک لحظه مناسب حمله کرد دست راست حضرت رو قد کرد و حضرت به صلاح شمشیر رو به دست چپ گرفت و باز در یک لحظه دیگر همین حکیم ابن توفیل گفته شد کسان دیگری همونده ما معروف این هست که دست چپ حضرت رو ارز کنم که قد کرد و خب این دیگه اون لحظه ناومدی عبدالفضل عباس سلام الله علیه و بدون دست در حال که مشک هم بردوش عبدالفضل سلام الله علیه و تیرهایی که متوجه از عباس سلام الله علیه شد و خب دستی ندارد که با این دست از خود دفاع بکند و عمود همین حکیم, حکیم ابن توفعی متوجه سر مبارک عبل فضل عباس شد و دیگه از عصب و زمین افتاد دیگه زبان آجزه از بیان این که کسی که دو دست در نداره چگونه از به زمین افتاده و با صورت و زمین افتاد و چه وضعی عبل فضل پیدا کرد که در ادامه یک به اصطلاح جمله بسیار جانکاه در همین نقل آمده که امام حسین علیه السلام وقتی که شنید صدای ابن فز علیه السلام رو به خودش رو رسوند بکا بکا آن شدیدا میگه امام حسین علیه السلام گریه شدیدی کرد در وقتی مشاهده کردیم صحنه رو برای ابل فضل عباس و در آغوش امام حسین علیه السلام این سقای فداکار و جانفشان ابی عبدالله علیه السلام به شهادت رسید خیلی ممنونم آقای جو بسیار استفاده کردیم از کلامتون شما که خدا خیلیتون بده و در اعداریی هایی که تشریف باید ما رو همدا کنیم همچ لط که ممنونم خودن باشه مهمشون. بسیار گریست تا که بیتاب شداب خون ریخت زدیدگان و خوناب شد از شدت تشنگامیت ای سقا از شدت تشنکامیت ای سقا آن روز ز شرم روی تو آشدا السلام <تصفيق> علیک ایوهن عبدالصال المتی علی الله ن غلبت باشد وقتی خبر آمد، تیت مییم با هم به همه شما شنابندگانی گران مییم پس روز تاسو آب خداوند رو شاکریم که امروز توفیق توفیهگواه داده تا بیشتر از اباب دلار و سه نره سلام بیشتر بیشتر از او از حضرت با صله سلام بگیم امیدواریم که مورد زای حضرت حق واقع بشه و اجبش رو اقا ابابلا بهمون بده در این بخش از برنامه میزبار و دکتر حساب و مستمین استاد لajevadi هستیم در برنامه و بحث قبلی خودمون رو پیگیری خواهیم کرد و طول گفتگومون با آقای لajevadi درباره خطبه منای حضرت رو سنت هستند. آقای لajevadi سلام می‌کنم به شما خیلی خوش آمدید تشکر می‌کنم. خواهش میکنم بسم الله الرحیم خدمت حضرت عالی شنوندگان عزیز و همه دوستان ارزه سلام و ادب و ارزه دارم. امیدوارم که لحظاتی که در خدمت شما هستیم بتونیم مطالبی که رضای خدا هست انشاءالله در زبان ما جاری باشه و در خدمتون هست انشالله. نتونه ارز کنم که ما درباره برای خطبه ای که حضرت عبا عبدالله سیند سلام در سرزمین منای را تفرمودن در زمان زنده بودن معاویه و قبل از واقعی آشورا گفتگو میکنیم با حاجاتورستان و مسلمین استاد لاجوهدی در برنامه و از این خطبه در حقیقت درس میگیریم آیه لاجوهدی در خدمتتون هستیم خیش کنم امور سری میکنیم که خطبه را اتصال بدیم به بحث در حقیقت خط جریان بین به و قدیر یعنی حقیقت توحید و نبوت و ولایت و انتظار و در حقیقت ظهور و وظیفه‌ای که منتظرین خط رو باید ادامه بده این روز فردا بحث رو باید بله نهی من از... از مطالبی که قطعا جاداش به پردازیم رو گبور می‌کنم به خاطر اینکه زیاد تو مواسع فرعی قرار نگیریم من کل خطبر بارها شما خیلی خوب توضیح دادین و خیلی خوب خلاصه بندی کردین آقا عبا عبدالله الحسنی جامعه شناسی بسیار دقیقی دارن بله. چهار گروه رو در اینجاها جاها حضرت به خصوص روشون تأکید دارن هم وظیفهشون رو مشخص میکنن و اینکه اینها اگر کوتاهی بکنن چه حجیمه‌ای و چه صلمی در دین و در نظام اجتماعی دینی ایجاد میشه. بله. اول رهبانیونو فرمودن، رحبان رو فرمودن، ربانیون رو فرمودن. این دو گروه وظیفه فهم دین، درک دین، حفاظت از دین در حفاظت از متدینین رو بر دارن. بله گروه دوم رو حساب مطرح کردن، گروه های تأثیر گذار اجتماعی، حالا اهل علمن، اهل خیرن، اینهایی که در حقیقت مردم اونها هم راجعه می قدرتمندن، قدرتشون از هر کجا آمده و تکلیفی رو ایجاد میکنه، اونم تکلیف حفاظت از مردم و تکلیف از علما که ازت فرمودن شما، بیشترین حقی رو تضایع کردید، حق ائمه بود، استخفاف حق ائمه بود و از به مردن حق مظلومان بود و فزونی خواهی برای خودتون بود این جریان دومی بود که کاملا توضیح دادن جریان سومی که حضرت خیلی بهشون تاکید دادن ال که مقصود مساق بارز و خاصشون خود ائمه هستن که مجاری العلماء به امور الامور به العلماء نقش علمای راستین که خود ائمه معصومین هستند بله حضرت فرمودم بیشترین مصیبت و گرفتاری که شما پیدا کردید و معاویه و جریان نفاق برتون مسلط شده و امکاناتتون از از بین برده حکومت و اهداف دینی شما گرفته و حقوق رضایی کرده مردم رو گرفتار کرده ارزش‌ها رو به هم زده از کنم خدمت شما ساختار شکنی کرده، از کنم اون بیشترین مصیبت مصیبت ازما اینه که شما معاویه رو گذاشتین و جریان نفاق و اهل بیت رو و که باید حق رو به پادران کنار زدید. اونا با کمک شما باید رو بدن. یه نکته یه است. ببینید خداوند نمیخواد با اجبار دینش حاکم باشه. میخواد با طبیعی. ائمه معصومین نمیخوان با اجبار به حق شما گرایش بیدا کنید. احد ناسی گرایش بیدا کنند. لی من احلکه ان بینته. این احیاگری، این روشندلی و روشنگری روش اهل بیت بوده. یعنی خیلی راحته. یعنی راحت هست که آنچنان سخت نیست که امام حسن مشتبه بیان توضیح بدن. لشکر رو آماده کنند. سه بار لشکر خیانت کنه. نقشه ترور حضرت رو بکشن و بیان بگن اقاما نمیخواییم شما حاکم باشی. حضرت بیانید خواسته خودتونه بدانید اشتباه بزرگی دارید میکنی معاویه به بعدهاش عمل نمیکنه حتی شما رو به دنیاتونم میرسونه در خودبه این معروفی که آقای مامحسد مشتالهی السلام در قبل از این که با معاویه سرک کنند دارن حضرت بیانی که دارن که میبینم که فرزندان شما ناموس شما بزرگان شما در به خانه معاویه و بنی امیه ایستادن طلب آبی میکنن شما به اونا آبی نخواد به شما آبی نخواهند داد شما که عزت رو از دین نخواستید قطعاً با کفار و نفاق که بدتر از کفار عزت پیدا نمیکنه حتی عزت در دنیا درسته خب این گروه در حقیقت سوم گروه اصابه بودن گروه چهارم عموم مردم است مردمی هستند که از یه جهتی باید حمایت بشن حفاظت بشن تربیت بشن مدیریت بشن از طرفی باید برومن بشن فهیم بشن خودشون بیان درسه اجتماعی توانمند بشن نکته ای که قرآن در مورد روش تربیت انبیا مطرح میکنه بحث اینه که خداوند لقد من الله علی المؤمنین اذ فیهم رسول فرستاده تا اینها انسانها از خاک بلند بشند اون آیه قرآن صورت هست, هست که اشد علی الکفار بشند رحماء بینهم باشند تراهم رکعا سجدا یبتغون من فضل الله باشند در نظام تربیتی اسلام که یک گروه بفهمند ولو علما ولو ائمه دیگران عمل کنند روش تربیتی دینی سختیش بر این احساس کرد دیگران بفهمند بخواهند و بیایند درست کنید با روش تربیتی مردم بفهمند بخواهند و بیایند اقدام کنند درست فهم ایمان خواستن اقدام و عمل این خیلی سخته این شما دست بچه رو میگی چی نگو من پدرتم هم میخوایم بریم بیرون هر جا من رفتم و این تعبیری که ما میگیم امه از ما اطاعت رو میخوان اطاعت برخواسته از فهم و درک اطاعتی که شما از دکتر میکنی اطاعتی که شما از متخصص میکنی میفهمیم دردمون چیز میفهمیم نیازمون چیز میفهمیم چی میخواهیم و از کی میخواهیم بس با باور با با و با اعتقاد و با خواستمون و با عملمون رفعت وجودی پیدا میکنیم بالا میریم رونده میشیم این خیلی مهمه حفظت فرمودن شما متفرق شدید حق رو سلب کردید به خاطر دنیا طلبیتون این نکته ای رو که حالا تو این فرصتی ای رو که من نمیخوام بیشتر از زمانی که از مطرح کنم چی شد اینا متشتت شدن تفرق از حق بود نکته ایست که در امروز جامعه ما مهمه حق خواهی ما حق جویی ما به دنبال حق بودن آدم ها با محک حق و میزان حق شناخته میشن شخص اومد خدمت آقا میرال مؤمنین عرضه داشت در جنگ سفین هست که شما اون طرف اهل قرآن هست قرآن رو سرگرفتن بعضا از صحابه هستن این طرف هم همه یاران شما از ابرار هستن خب من چی رو انتخاب کنم چی رو انتخاب کنم تحییری که بعضا بعضی از جریانات سیاسی ما دارن آقا فلانی جبه رفته فلانی منم با حضرت امام بوده فلانی بیت رهبری بوده از خانواده امام هست این رو،, این رو ما بدونیم علی یاد ما داد با حق افرادو بسنجیم اونطور که مقومه عظم رهبری هم بهش اشاره بله. ملاک حال امروز افرادی که بله خلاله بله. خلاله با حق حضرت یه ملاک دادم ببینید ملاک خیلی قابل فهمه و میشه کاملا استفاد اعرف الحق تعرف اهل، حق رو بشناس اهلش رو می‌شناسید حالا اهلش فامیلتون صله خب نباشه مگ ملاک فامیل بودنه خلا من صریح بگم مگ ملاک نزد کسانی بودن که حتی خیمه با رسول الله بودن کنار زدن مرتد شدن ارتدن دینه کم برگشتن از دین کوتاهی کردن جنگ احد فرار کردند رفتن منافق شدن ایمانشون برداشته شد کفرشون رو پنهان کردن به خاطر سودا اینکه کنار بودیش معیتی نیست مصاحبه رسول بودنش ارزشی نیست همراه رسول بودن همراه فکری است همراه مییتی است اونایی که با رسول همدر شدند همنوا شدند تفرق کومانه حق خواهی و حق جویی و میزان حق رو برای شناخت جریانات با اونها سنجیدن خیلی مهمه شما از حق طبیعی که متفرق شدید و در روش ها که سنت هست اختلاف پیدا کردید. بله. ببینید روش یک جامعه دینی اینه که کم معونه باشه. ساده زندگی کردن جز رهبران دینی آقا میرال مؤمنین بوده. دوست. اول از زعفا شروع کردن جد روش علویه. حالا ما بخوایم اینو توجیه از زمان فرق میکنه اون اینا دیگه حق رو کنار گذاشتنه. پس بگو من با علی همراه نیستم. علی برای زمان 1600 سال پیش بوده. بله. اگر میگی امیرالمؤمنین ولایت برای همه ها بوده و روشش روش الهیست و مخاطبه روش الهی هم انسان هست برای اینکه انسان روابطش عالی باشه، روابطش انسانی باشه، روابط انسان هم تو گفتگو شد، بر حرمت انسان است. دیگه نمیتونی بیایی دل شرایطی که تا ما دستمون به حکومت نرسیده دیگران رو محاکمه میکنیم چرا ساده زندگی نمی‌کنی خودمون به مقام می‌رسیم وکیل میشیم وزیر میشیم روش زندگیمون ادبیات زندگیمون نوع جایگاه خونه‌مون بقول آقا میگفت تا قبلا تو نیروها زندگی میکرد الان سالاریا رو دنبالشو میگیره فرق میکنه این فرق کردن و چی تفاوت کرده تا شما با کمتر بشی من یکی از عزیزان گفتم گفتم در حکومت علی که تیک به استانداری میرسید کمتر میشد شما هنوز نرسیده بیشتر میشه پس فرمون یا علی اشتباه کرد یا شما نمیشه جمع کرد دوست چیز باعث شد که یکی تفرغ از حق و اختلافتون در روش ها بعد از این که همهتون آگاه شدید باعث شد که حق از مجاری خودش خارج بشه علما بزرگان اهل بیت ارزش مجاری امور نباشد جریان نفاق بله. سیتره پیدا کنند اگر یک توجه به روش رسول الله باشه بگه ما میتونیم روش آل سعود رو بپذیریم به عنوان یک روش اسلامی مگر کوبیت رو میتونید بپذیرید این اصلافگری که میکنند این دلارها کذایی رو میان تو کشورهای خارج یه مقاله من خوندم میگن وقتی که این نمیدونم خانواده این افراد میان در اسپانیا وارد میشن تو ویلاهای خودشون صد دلار صد دلار هم جور میبخشن و میرن از کجا برای کی وای میخواد ببخشید برید به هموطنای خودتو حد قلب بدید حالا این بخشش چی به خاطر چی چون روش شوشه است و روش یه خانوادگی را به شالوش خساس... سرمایه‌داریه بله دیگه, دیگه. این... این دینی نیست ما تو مملکت ما باشه دینی نیست من خودوز بخوام تو ده لباس من هم باشه دینی نیست این فرقی نمی‌کنه من نمیگم اگه لباس عربی بپوشید بی دین هستید اگه لباس ما بپوشید نه ما نه نه بی دینیه اینا دین اینو نمیگه. نمیگه دین اینا نمیگه که آقا تو جامعه‌ای که ما کسی که دیگه کفش بپوشه من نمی‌دونم سه تا کفش داشته باشه داشته باشم اشتباه این روایات ما داره بیان میکنه جامعه یک خانواده است توی خانواده شما نمیتونی که نمیدونم دو تا کوچلوار داشته باشی برادرت یه دونم نداشته باشه نمیشه و که بگی خودم کار کردم مال خودته مال خودتو باید خوب بذار چون المالو مال الله تعبیری که حضرت دانا من تو دقیقه خوش خوش. بعد بهش می‌پردازم وقتی که شما کار رو واگذار کردید به جریان نفع و که ارزش‌هاش شما رو ارزش چه اتفاقی میافته؟ چگونه ریشه ها خوش میشه؟ چی شویو پیدا میکنه؟ فکر نکنیم اگر از حسن جدا شدیم عمر سعد بهمون حکومت میده فکر نکنیم اگر خدایی نکرده خدایی نکرده با کوتاهیمون رو سینه حجرت خدا نشستیم و بر تیرهایی که به قلب حجرت خدا می نشست سکوت کردیم دشمن میاد به ما بها میده ارزش میده نه عمر سعدم خودش بهره نگرفت دست اقتدار حق و انتقام حق و حقانیت حق کار خودشو انجام میده یا با دست من که دست خدا میشه یا با دست نظام احسنی که او گذاشته که او قسم یاد کرده اونهایی که از خط خارج بشند اونها رو به خاک مسئلت مینشونه نشونه همینطور که یزید نتونه از ادامه پیدا کنه و معاویه با تمام کیدش و با تمام نبوغش که چهار نفر در عرب نابقه بودن که یکیش معاویه بود. دو زیرکی و نبوغ حالا چجور استفاده کرد از, از این نبوغش کاری نداریم اما رو داشت. زیرکی رو داشت. شناخت از جامعه رو داشت. کاملا جامعه شناسه بسیار دقیق بود. عرب شناس بسیار دقیق بود. آدم شناس بود. با کی چجور؟ با افراد خودش حتی چه جور برخورد کنه. یک دینار خودشو بی خود مصرف نمی‌کنه. این از کیلو با دینار فاسد کنه، کیلو با تهدید فاسد کنه، کیلو با تطمیع فاسد کنه. چه کسی رو حتی در بعضی داریم که خود بنی امیه رو به جون هم دیگه مینداخت. درسته. تا بتونه کارشو پیش ببره بدانیم. حالا تعبیر دوم رو در وقت بعدی ان در شاءالله. خیلی ممنون متشکرم و الهی سلامتم باشی و تاسوعا روز نهم ما هست و ما برادر با وفای حسین و تاسوعا آغاز فصل اتش است دریاها در این روز باید از شرم بخشتند و چشمها قطر قطع عشق شبند و بر دامن تشنی خاک بی وفا فروغتند سو آغاز تشنگی انسان هاست از آن روز که آب را بستند آدمی تشنی زلال نام بازست روی ای. سرم بی تو برادر خاک آرم زود پیدا کردم این قدرها هم سخت نیست راحت پیدا کردم آخه پیکرت را دیدم کرب جمریم رد سرخی که به تو بالا کنارت اومد خون دست تو از ما بین دستم ریخته زخم هایت ابروانت بند بندت شدن بر سرت انگار صدها ابن ملجم ریفده از عمودی که سرت خورده سنگیل تر نبود چهره زیبای تو بدجور در امریک. ای حسن خب بازگردیم به بحثمون در روی خود بله. نتیجه این کوتاهی کردنها باعث میشه که نفاق حاکم بشه، مسلط بشه. بله. وقتی مسلط میشه، حضرت خیلی زیبا توضیح میدن. میگن یعملون به شبهات و یسیرون شهوات اینا سیرشون در شهواته و باش به شبهه عمل میکنن، شبهات رو از کنم خدم شما مبنای کار خودش رو میگن و شهوات رو حاکم میکنن اینجوریست که ما فکر کنیم حالا این آمدن به حکومت رسیدن خب حکومت رو میخوان نه میان ریشه ها رو خوش میکنن شپه اساس دین رو از بمیبره و شهوات انرژی و توان رو میگیره جامعه که شهوت برد شد جامعه که فسخ در درون شیشه گرفت. از درون پوک میشه طبیلی بسیار زیبایی در قرآن هست که این سؤال باقی میمونه که فرعون چیکار میکرد بنی رو و جامعه خودش رو به بندگی کشیده بود اولو میکرد خیلی زیبا آیات قرآن جامعه شناسی میکنه و فرعون قومش رو استخفاف از درون پود کردنه دیدین قدیم ما انار میگرفتیم ظاهرش کاری زیبا بود دست که میزدید پوک پوک بود درسته. دود بیرون میزدی چی نداشت ظاهر حکومت و انار زیبای میگیرن از دور ظاهر و نمازش رو حفظ میکنن پنگ بارم نماد دو عربستان میرن میان یا الله میگن همه میریزن چی میکنه ظاهر از درون روابط قوت رو میگیرن با چی و فسق فسخف فقومهو فعتاؤه قومشو رو از درون پوک میکرد اونام اطاعتش میکردن. خب چرا اطاعت میکردن؟ این هم کانو قومان فاسقی. اینا فاسق بودن. فسق گناه از درون پوک شدن توان حرکت رو توان مبارزه رو غیرهمیت و غیرت بودن رو از ما میگیره. چرا امروز به خاطر که بیان با جنگ حریف ملت ایران نشدن؟ با نمیدونم ها و ترور حریف ملت ایران نشدن. چرا به تنبیل مقام عظم رهبری میان با ناتو فرهنگی با فیلم و فکش ها و فساد و نمیدونم چی و هرمت چکنی و نمیدونم ترویج مسائل که ذهن ها رو مشغول کنه روابز رو از بین ببره. این یسیرونف شهوات. سیده در شه حالا بگی چونگه شهوات بعد شهوات یعنی میلزیه شهوت یعنی میل بله یعنی شهوت یعنی میل زیادی مثل زیاد خوردنه خوردن خوب لازمه زیاد خوردن بده درسته شهوت یعنی میل ام... شهوت رانی بده است. اما به اندازه میل تامین شده نیاز زندگیست آب نیاز زندگی بعد بخوریم غذا نیاز زندگی آبته نیاز زندگی دیره که به معنی شهوات متفاده این مهور رو قرار داده اونا چرا شهوات رو میارن؟ برای چه شبهات و قوت میبخشند؟ شبهات باعث میشه شما اقایت رو از پس در درون پوک میشه از اون توان خود رو از دست میدی باورات رو از دست میدی باور نباشه رویش نیست شهوات رو ایجاد میکنن شهوات وقت تلف کردن توان رو از بین بردن از به مسائل پایین نگریستن هست و ادامه میدن آقا عبدالله جمعیت و هفته ما یادمون نده در مناس هفصد نفر از حالا بزرگان و تأثیرگذاران رو جمع کردن حضرت وظیفه افراد کاملا مشخص کردن دارن میگن اگر قدرت طلبی نمینام توجه به شهوات و اینا گسترش پیدا بکنه حق به حقدار نخواهد رسید ضعیف ضعیفتر خواهد شد فقیر فقیرتر خواهد شد فاسد فاسدتر خواهد شد گروه های که از همون زمان گروههای های ایجاد شدن چون از مسیر خودش خارج شدن و این به جایی خواهد که فرزت بیدن من تعجب میکنم که شما فساد رو میبینید بدعت رو میبینید شهوت رو میبینید قدرت رو میبینید که نفاق قدرت نمایی میکنه و جریان رو داره مسیر رو داره عوض میکنه اما شما سکوت میکنید شما میپذیرید شما به یک سری از بهانه‌های واهی از انجام وظیفه خودتون دوری می‌کنید بدانید که این تسلط به شما هم خواهد رسید شما ها هم در درد خواهد گرفت و آخرین فقره رو که من انتخاب کردم جواب سوال شماست یه تعبیری شما داشی در ایک از سوالاتون که سوال خیلی از جوان‌ها یا بعدی از بعضی از افرادی که تحلیل می‌خوان بکنن که آقا دو تا قوم دو تا فامیل بر اساس از کنم رقابت یا بر اساس خصومت ریشه ای اومدن به اون بنی هاشم بنی امیه با هم دیگه اومدن درگیر شدن آقا اینجا جواب میدن که من در قسمت آخری بهون می‌پردازم که جواب میدن که خدای تو شهادت بده اگر ما این حرفا رو میزنی به دنبال چی هستیم از چی نگران هستیم حکومت رو بار شخص خودمون میخواییم میکنیم حکومت بکنیم که ما بگیم من امکانات به ما برسه آقا تو حاکم نباش تا من باشم تو نخور تا من بخورم سر اینکه چه کسی امکانات رو بخوره و این صندلی رو بگیره مطرحه واقعا ما میخواست بیاد بشینه مثلا در کوفه مثلا جایی که فرض بگیرین عبیدالله نشسته بود بشینه. حالا فرض بیم کارهای خوب انجام بده یا نه دعوا سر چیه؟ اینجا آقا به این سوالی که حضرت عالی فهم بودی کاملا جواب بدن که به نظر من برای آخرین فراز این کرام مولا رو انتخاب کنیم انشاءالله برای ما مفید باشه عشان. از لذ دو عالم دست برداشت از این دنیای پرغم دست برداشت چنان کردید گرم عشق بازی که از دستان خود هم دست برداشت هلل اباس وا ویلا و ویلا, و ویلا all you know خب باز هم صحبت کنیم با حجت و المسلمین ناصر داجی وردی درباره دو شبهه شوبه که خود و استاد فرمودن درباره این که حالا آیا واقعا این واقعی عاشورا چیزی به نام جنگ قوم و ای بوده جنگ بین دو برادر بوده که حالا از قدیم بوده و یکم شبهه که شاید توی چند تا برنامه قبل بهش در حیرت شوبه رو مطرح کردیم اما پاسخش رو به سطح واضحه و کامل برای گرامی ندادیم و اون این بود که چه واجب فند بودند امر معروف نهی از منکر را صدر فرایض حالا بله. انشاءالله بین هر دو شما اشاره بکنید بله صحبت این بود که امر معروف نهی کرد منکر بین فرایض با از جهت اجری اهمیت بیشتری بهش دادن بله. هم هم دا اونجا مطرح کردم بخوادی که دعوت به همه اسلامه بله. یعنی همه فرایض یک پشوانه میخواد اونم خواسته و معروف و خوب بودنونه یعنی که اگر اون نباشد فراهزه دیگه انگیزه خودشون رو از دست میدنی پشتوانه خودشون رو از دست میدن احتمالا این میشه که برای اینکه کسی ما بخوایم نماز خون بکنیم، باید مرره به نماز م... یعنی براش محبوب کنیم نماز رو برای بچه رو ق می کنیمیم و بچه قضا میخوایم بدیم قضا خیلی خوبه اما بچه نمیخواد ضائقش تحریک نشده بعد قضا رو براش مطلوب کنیم که این امر معروفه یعنی مطلوب کردن فراائض وظیفه ای معروف دو و یه نکته ای هم حالا مشخص شد که دمبوده نماز میگیم ان قبلهت اه... قبله ما سوا دردت ما سوا از کلام پچلا رابطه بین نماز که و... اونجا قبولی هست درسته قبولی اما عمال... حتی امر معروفم قبولیش به ارتباط با حقه من ممکنه از بش... شما کار خوب انجام بدین به خاطر خدا نیت خدا... مهمه نیت مهمه که سلات توجه به حقه اینه که این قبولت خوب ما صباح به این رو تد رفتید ملاک قبولی است که ارتباط ملاک قبولی اعمال پیش نیت میگین یکی پشوانه اجرای کمر معروف یعنی مطلوب کردن محبوب کردن قرار میگیره یکی هم نمود ولایت که در طراحی وقتی شما می‌خواید طراحی بکنید یه چیزایی فونداسیون حرکت شما فونداسیون بنای رفیع شما بله ارکان اون فونداسیون دینه درسته که توش ولایت مهمترین رکنه پس یکی نگاه به رکن بنوان ریش ریشه‌های اصلی دین که اگه اون نباشد اصلا دین تعقفه پایه‌هایی که دین بر واسه داره بله پایه‌ها که ولایت مهمتری پایه هست ولم میگه ولم تناد بهش این که کما نو ولایت به خاطر ولایت قبول نمی‌کردن به خاطر که واشون سخت بود ببینید ولایت پذیرشه پذیرش رهبری خداست انسان مغروره عموم آدمانه نمی‌خوان بچه نمیخواد بالا بره چون بالا رفتن سخته. من تو این برنامه, برنامه صبح است کردم اگه انسانی که می‌خواد بالا بره با دو چیز باید مبارزه کنه. یکی با جاذبه، یکی با خودش. یه بالا رفتن سخته. جهاد با نفس رو بخواد جهاد با دشمن خب راحت‌تره. دشمن دیگه دشمنی انگیزه ای در من ایجاد می‌کنه که باش مبارزه کنم. اما جواب با خودم خیلی سخته. چون خود خامم. پس به خاطر رفتن هم باید با جاذبه مخالفت کنی با معنی. روند طبیعی روند طبیعی انسان خودش رو میخواد دوست داره بخواد بالا بره سخته رفتن بالا احتیاج به مربی داره ولی داره ولی هم در ولایته بلا هم تون این که اصرار میکنن تکرار میکنن که بابا اگر تو ولی الله العظم رو نداشته باشی نمیتونی با خودت این راه ملکتی رو بری خودت چرو میشه با خودت چرو میشه و به خودت ختم میشه درسته از خودایی که سه مطلب. امر معروف پشوانه همه بله. نماز قبولی همه فرائز ولایت فعلیت بخشیدن و بالا رفتن و سرپرستی کردن نسبت به ارکان دیگه درسته این رو شاید این چه که میرسه شوشان فهم. دیجای بهتری به ذهنش قطعا هم اینطور خاله اما شفه دو الان بگم یا بعد بل؟ بله همین الان بگید اجازه بدید بله کنم نه بفهمیدم <تصف> از کنم فرمایید <تصف> شفه شما فرمودید از قدیم ایام مطرح بوده تو کتبم آمده بعضی از اهل سنت هم بهش پرداختهن که درگیری امام حسین با یزید درگیری قومی بوده خواستن اون اهداف جهانی داشت حرکت بگیرن از در خطبه این چقدر تعبیر مذدومانه است و عارفانه است یا اللهم نکه تعلم تو خودت میدونی انهو لم یکن انهو لم یکن عبارتی که به هیچ وجه در دوران ما اهل بید مننا از ما اهل بید ما تنافسا فی سلطانیم ما دنبال قدرت نبودیم ایش ما اصلا قدرت نمیخواستیم برای قدرت ولل تماس من فضول دنیا دنبال دنیا نبودیم دنبال مال نبودیم حالا چرا مثلا پولار میدید به ماویه میدید به ما. می چونم اصلا شام دست معاویت دست ما باشه نرستم. این این چقدر لطیفه حتام دنیا این اصلا ما همه دنیا رو نمیخواندم برای اینا همه دنیا به طبیع آقا میرن از کفش پارشون هم بیرزشتره خب چی رو میخوی حسین جان چیه جنگیدی؟ چرا چرا مبارزه تا کی مبارزه ولی که ما میخواییم چی ببینیم المعالم من دینه ارزش های دین تو احیا بشه ما نمیتونیم شاهد باشیم بشریت حدر بره یه باغبان چگونه میتونه ببینه که سیبهای از کنم زحمات زیر پای خیلی عضو خواهم اولاق قرار گرفته اومده یک حیوانی داره همه درختای های بشریت رو لح میکنه تو میره سکوت کنه قهقه بزن بیا ما دنیا تراب دیستیم معالم ارزشها، ها خوبیه های دین تو از رفته ما میخواییم تو زهر الاسطافی بلادک در سرزمین بشریت اصلاح باشه انسان ها خوب زندگی کنند شاد زندگی کند بارور زندگی کند آدم ها بهروند بشن زمین چون ما در آقای مامزان میما که حضرت حکومت میکنه یک وجب اگه خاک زمین نیست مگه اینکه آباد شد درست یه انسان نیست مگه اینکه به های خودش رسید. انقدر کنوز زمین گنج زمین همین چیزی که زمین داره، با تربیتی که انسان پیدا می‌کنه، انقدر گسترش پیدا میکنه چنگ به آسمان ها میزنن. یه چی شد امام زمان اومد که آدم ها را آقابتی کن دنیا آباد شد خب اینا با هم نداره حضرت میگه همه توزرال اسطافی بلاده ای و یع من المدومون خیلی تعبیر زیبا. آقا با عبدالله میفرمایند که نهایتا که مظلوم بودن به امنیت برسند نمیخوام جنگ دام پیدا کنه. این ببینید رو من تکرار کنم امیرالمومنین جنگ نمیخواست تصول الله جنگ نمیخواستن. آقای امام حسین جنگ نمیخواست حرکت کردن رفتن احکام اسلام رو پیاده کنن باغبانی بودن که رفتن باغبانی کنن حراست کنن حفاظت کنن برسته. انسان بف... اونها مانع شدند اونها شمشیر کشیدند اونها حتی آقا ابو عبدالله اصبه های اونا رو هم سیراب میکنه میگه حق دارن میگه میگه اصبه هاشون تشنه هستن آب بهشون بدی و یه عمل به فرائبه که به و, و احکامک اینها به فرائز تو فرائز سنت احکام اینها دستور خداست به کامپیوتر انسان به وجود انسان اصلا باید بدون برنامه نمیتونه برسه به اهداف عالی خودش بدون احکام نمیتونه به اون اهداف برسه بدون سنت ها و روش ها شیوه ها ما نمیتونیم یزیدی زندگی کنیم علوی محشور شویم باید زندگیمونم علوی روحانی معنوی باشه احکام به تو عمل کند به روش تو عمل کند روش ها و ارزش‌ها ها بینشون ارزش‌های الهی باشه آدم ها با فهمشون و ایمانشون ارزش پیدا کنه نه با شمشیرشون و ارتباط قدرتشون و ظلمشون و قبیلهشون آدم مطرح بشود بشر حرمت پیدا کند انسان رویش پیدا کند بعد ازن یه انتنسورون ها اگر شما ما رو کمک کرد و تنصفونا به ما حق دادید دقت کنید به ما حق دادید دیدید هر شما درسته بسنجید اگه این کار رو کردی ما از کنم خدمت شما شما رو نصرت میدیم و شما رو عزیز میکنیم اما اگه شما این کار رو نکردید ما رو کمک نکردید ما رو کنار گذاشتید حق رو به دیگران دادید به هر علتی بدونید اونا بر شما مسلط میشن حد دادن چه زمانی میگن زمانی که هنوز معاویه زنده است داده برنامه ریزی میکنه که یزید رو مسلط کنه پادشاه، پادشاهی کنه پادشاهی عربیس کنه عربیس کنن اونها بر شما قدرت پیدا میکنن و عملو فی اتفاع نور نبی کن اونا دست بر نمیدارن اونها میان نور نبی شما رو خاموش میکنن و حسبنا الله خدا کافیست و علیه توکلنا با او ما به او تکیم میکنیم وَلَئِهِ عَنِ ابْنَا وَلَئِهِ الْمَسِير ما انابمون به سوی او ما خدا رو میخواهیم شما را برای خدا میخواهیم حتی ما شما رو برای خودتون نمیخواهیم ائمه ما رو برای خودشون یا خودمون نمی‌خوام خودشون و ما رو برای خدا می‌خوام از اوكم ال الله ما شما رو میخواهیم برای خدا و اینکه همهگی به سوی او بریم اگر پذیرفتی اگر ما رو نصت دادی اگر به ما حق دادید و حق رو به ما برگردوندید ما هم به وزیفه خودمون عمل میکنیم اگر نه ما به خدا تکه میکنیم هدایتگری میکنیم تبیین میکنیم انتخاب با خودتون درست. خیلی ممنون و متشکر خب فکر میکنم خطبه منا تمام شد. تمام شد و حالا باز هم درباره خطبه به بخشای اشاره خواهیم کرد در دقایق آینده و فردا که خدمت شنوندگان بزرگوارمون خواهیم بود امیدواریم که شما عزیزان هم ما رو همراهی کنید تو منظومه پایان نایافتئی است که ماه در مدارش نیست تا ستارهای پس از خورشید را روشنی بخشد و شمس و زهوها و القمر قسم به خورشید در طلوعش و قسم به ماه در خضوعش در قدمش ای ماه بنی هاشن تو پیش آهنگ کاروان خرشیدی در میدان سیاه شب تو پرچمدار فاصله خورشیدی هر که میخواهد به خورشید برسد باید از مدار تو بگذارد هنوز بلندای شوکتت از ماه چهبت بر یا ابو افتاده رو زمین دست و مشک و علم رفتی و به پاشد آتیشی تو مرم رفتی و به پاشد آتیشی تو مرم سولانی شده سجده تو روخا که نماز آخر رو میخونی انگار با مادرم فاطمه این شاقی خیمه میزمه عبر خون توی چشان سر به من شیز نموند از ما اون یا ابو حشت من رو شکست، کول باره‌گم غم پشت من رو شکست، تیردم تا به پر، تو یه سینه نشست. تیردم تا به پر، تو یه سینه نشست. جواب لبای عشق تو بگو حالا من چیم بدن طرف خیمه های قریب باقد خمچ جوری برم حالا با نبودن تو امیدم ناامیده حالا با آیه لاجواردی در درباره معرفی کتاب هم بخش و خدمتون باشیم کوتاه بله من دیوز قول دادم که کتابایی که می پردازه به توضیح مفاهیمی که در حبتی با آقا آبا خصوصا حسین خصوصاً بحث امامت و ولایت و اقاهن مورد نیاز نسل امروز ما هست و به صورت شبه مطرح میشه شه واسه سال مطرح میشه. یه روز ای کتاب رو به از معرفی کردم امروز کتاب وارسان آشوران رو بهش کتابی است در پنگ فضل انتشارات لیلت القدر که ناشر آثار استاد در یه هست به صحب نشیر داده بحث استرار به حجت درش مطرح شد به این سوال میپردازه که ما چه اصلا ضرورتی داره ما دنبال حجت خدا بریم مگر انسان خودش نمیتونه خودش نیازاشو تمنی کنه چرا به حجت احتیاج داره بحث استرار به حجت بحث حق و شبهه رو در, در یک فصل مطرح کردند که معنای حق چیست در مقابل حق چی قرار داره شبه معناش چیست و چگونه میشتونه انسان موازینی از حق پیدا کنه که بتونه در سر زندگی خودش بتونه چارساز باشه حق و شبهه در اونجا مطلع شده بحث ام مطلعه که ام اصلا مقصود از امر چیه که خواستن که امر ما رو احیاء کنید معناش چیه و چگونه میشه امر ام احیاء بشه بحثم بحث وارثان عاشورا کی میتونه وارث آشورا باشه آشورا چیست و چه چیزی رو باقی گذاشته و چه کسانی میتونن عهدهدار باشن ارث آشورا رو ببرن درسته. چه شرایطی باید داشته باشن آخرین بحثم که بسیار زیباست یاد کنم خط اصحاب عبا عبدالله بعد از اصحاب عبا عبدالله رو شخصیتشون رو به زبان ادبی مطرح کردم کتاب کتاب مناسبی است به نظر من عزیزانی که بخوام به این مباحث نظری داشته باشن بهشون کمک میکنه و میتونن این کتاب رو تهیه کنن با دوستانشون بحث کنن منم خدمت عزیزان دانشجو طلبه دوستانی که دنبال این مباحث هستن رو عرض میکنم حتما کتاب لازم نیست که یک بار بخونم بگن تمام باشه یکبار مصرف نیست با هم گفتگو کنن بحث کنن آیا چه بررسی کنن اینها ارزش داره، اینها از کنم هدش شما کمتر از منابع مادی ما نیست، نا منابع معنوی ماست توجه به اینها باعث میشه ما اصول زندگی رو یاد بگیریم، با اصول آشنا بشیم و با اصول زندگی کنیم و چگونه اشاند. زندگی کردیم با اصول، رو انشالله یاد بگیریم. امیدوارم انشالله که براشون مفید باشه. انشالله. خیلی ممنونم ایلاد جوهدی ما در شب آشنا دریمیزیم به شب آشنا و قروب تاسوال رو داریم سپری میکنیم روزی که ما تعلق هست به حضرت عباس علیه السلام ها به جمعان مختلفی در برنامه راجع بشت صحبت کردیم با استاد جمباری حضورتون بگیم که دوستی تعبیر زوغی جالبی داشته و میگفت که بعضیا ملکه ذهنشون شده یک جمله ای مثلا این که طرف آب میخواد بخوره میگه صلی اللہ حالک این صلی اللہ حالک در همه جای زندگیش موج داره یعنی هر جایی به هر چیزی که میرسه به اشکال مختلف این جمله ملکه ذهنش شده و میگه و میگفتش که در روی ادب حضرت عباس میگفتش که حضرت عباس, عباس ملکه شده بود که ادب کنه و او عبدالله بسنه. دست به سینه بذاره و تعظیم کنه به حضرت ابا عب... عبدالله و تعبیری که خیلی انسان رو دگرگون میکنه اینه که اون دهده ای که حضرت دستانشون قطع شده بود طبق اون ملکه ذهن و طبق اون عادتشون وقتی حضرت ابا عبدالله رو میبینن با بازوهای بدون یادت در حقیقت میخواستن ادب کنن من این تکبیت رو یادم هست که هنوز هم که دو در فکر احترام منی هنوز هم که دو در فکر احترام منی چقدر زحمت دهی به بازوی هست ادامه این روزی کوتاه رو از آماشون همینه اون چیزی که قمر بنی هاشم رو بزرگ کرده اون چیزی که قمر بنی هاشم علیه السلام رو در حقیقت باب الهوائج کرده ارتباط آسمانی منکوتی داده صرف یک باور و یک اعتقاد به برادر به صرف اینکه از پدر مشترک هستن نیست وقتی دو دستش رو قطع میکنن و الله انگتر تمو یمینی اینی اوها ابدا هنوزم هم قمر ونی هاشم داره از حمایت میکنه خیلی حرفه ببینید یه موقع میگم من میگم امام من رو حمایت بکند میگم من حمایت میکنم خیلیه من سپر بلا من تیرا رو به سینه میخرم من قط علم میکنم تو از تو دفاع کنم چرا؟ چون بودن در تو رو ارزش برای خودم میدونه قمر بنی هاشون به صرف یه موسم برادرش بود صرفا عدب نمی کرد. امامش بود این اوهامی ابدن اندینی دینم ولایتم هست دینم امامم هست اون چشم خداست اون حجت خداست اون لطف خداست اون موهبت الهیه که خدا بخشیده و ان امام صادق یقینی و از حجت زمان خودم امام زمان خودم با همه وجودم دفاع میکنه. من امروز رو برنامه سیما خدمت عزیزان عرض کردم. ببینید گفتم اگر هستیتون رو دادید تکه تکه شدید طلبکار کار شدید بدید بدونید بازنده ای. بدونیم بازنده کسی که در راه خدا در راه حسین قدم برموداره انقدر بهش میبخشن همیشه شرمنده حسین. قمر بنی هاشین بابل هوایجو از حسین گرفته چون در مقابل و به خاطر حسین و دفاع از حسین خدا او رو بابل هوایج کرده پس شرمنده حسینه میگه منو بر نگردم به خیمه من شرمنده بچه هایتا خیلی حرفه ببین اصلا مثل که درد تیکت اربن اربای خودش متوجه نیست میگم وقتی که حمید ابن مسلم زهران میگه دیدم آقا ابو عبدالله امام حسین اومد پایین دستش داره رو جمع میکنه احساس کردم قرآنی رو پاره کرد واخرا قرانی بود که پاره اگه قرآن آیاتش آیات الهی نیست قمری بن هاشم میگه آیات الهی نیست آیات الهی انسان برازنده است قمری به هاشم آیات الهی دستش رو جمع میکنه رو جمع میکنه کف ایمن کف الایسر اصلا که شما که ابراهیمی یه عجیبی اصلا درس انسان شدن و یاد گرفتن و شیدارفتنه وقتی میاد حالا من وقتی تو دارم میگم، ولی بعدی دو دقیقه به من وقت بدید دو روز پیش یکی از دوستان بینا بینا که مددا است، اومد محسسه یک مصیبتی خون خیلی جالب خیلی خشن گوه من چشم دارم ما آدم ها رو با بوشون احساسشون میکن. کمر بنی هاشم که چشم نداشت، چشمش تیر خورد و تیر سه شعبه یعنی اصلا همه صورت رو از بین اون چشمم که دیگه خون ریخته و چیزی رو نمی‌دید. چه فهمید؟ از کجا فهمید برادر عمر؟ گفت من میفهمم وقتی که اومد برادر از صدا کرد، دو تا خواهش داره. دو تا خواهش داره. غروب تاسو آسو شب اشاق اونهایی که خوب انتخاب کردن آشغانه پریدن همه هستیشون رو قصد قطر خونشون رو خوب تبدیل کردن خون اونها به زمین نریخ و آ... خدا خرید وقتی میاد میگه برادر خون چشمن رو پاک از جدم شنیدم که زیارت حسین زیارت خدا در ملکوت. میخوام یکبار بار تو رو زیارت کن میخوام صورت تو نقش بر چشم من داشته باشه و بره و منو رو بر نگرد تو بذار باشه من شرمد قمر بنیاشم زائر حسین بود و رفت بدون ادعا بدون مطالبه بدون که بخواد آخ بگه دردشو برای حجت بگه ما همه درد دنیای خود رو بیش حجت خدا میبریم اونم ناز ما رو میکشه چیکار کنه اونا همه تیکه تیکه خودشون رو برای حجت خدا تو دل خودشون ریختن نه که باب الله هستن حجت الله هستن باب الهباقش هستن خدا را قسم میدین به حق وفای غمر بنیهاش به حق تسلیم او به حق اسلام او به حق خیرخواهی او وفاداری رو سمیمیت رو صداقت رو به وجود ما به قلب ما به عشق چشم ما به گامه های ما صبات دین رو ببخش و ما رو با غمر بدیه هاشم محشود کنیم انتماع صدا دا دارم از شما های وجودی خیلی لطف کردید خدا نگهتارتون باشه تا فرده احشالله. که ما صدیبتون خدا خداحافظ شما رفتی و چه بر سر کنار بدالی اجبار ناله از دبی عبد الله زنوش خاموش همه ابراز فقط برای روزه اباد مدنی باعث فی واج اله حسین سریشی شده بی عبد بلند بلند کنال بدنم باست داره ناله میزنه و گریه دشمنم خوب همراهی کرد همچی که سزا نالش بلند شد خب دنگوش بدید چی میگه پنادا با خود شروع هل هل هل راستیو بار سر من توان روزه من من پشت و پناه یکی در روزه من نه یک جبلار رحم از بربر منبارریلا ها امشب زمین و زمان گریه می آسمان می گیرید و دریا موج خون میزند. ای پردگار حسین. این چه دنیایی است که برگزیدگانت را تاب نمی آورد این چه قربتی است که در شب دهم ماه خون آسمان دلها را گرفته است در این لحظه های غمبار تو را می خانم به حق خون ریخته مولایم سید الشهدا علیه السلام که ظهور منتقم آل محمد را نزدیک فرمایی و قم دیرینه ما را به سروب جاودان بدل سازیم خدایان امشب شب اشخوازی کربلایان است با محبوب یگانه خیش امشب در کربلا آرامشی برپاست آرامشی قبل از توفان بلا از خیمه ها صدای خدا خدا میآید، آید صدای ذکر صدای قرآن صدای تکبیر نماز و تسبیح حضرت حق خوشا آنان که الله یارشان بی خدایا کاش آن روز بودیم و با آنان رستگار میشدیم. پس امروز که به یاد آنان عشق میریزیم و مویه میکنیم ما را در راه حسین ابن علی علیه السلام و یارانش پایدار به دارو بمیرمیم دم این صدایه قدم عباس است گرد در گرد حرم میچرخد میوزد در گرد حرم میگردد میوزد باد و صدای تپش بیرقه او میآید. علمی در دستی تیغ در دست دگر زیر لب زکت خدا میگوید ساعتی اما بعد کودکان بیدارن دختران بیتابن گرچه نرسید نرسیده سهر چه شده خواب چشمان همه بال زده گوهی یک نفر از راه خبر آورده خبری پیچیده خیمه ها لرزیده چه خبر شده اش در چشم همه حلق زده امه جان کاری کن شیر برگرد هرم میگردد همه جا تاریک است. دشت دشتی پرخار آسمان تیره و تار جز صدای قدمش زمزمه ها خاموش است ناگهان چشمش دید که کسی می آید در سیاهی شبی کیست چشما برغی زد سمت او برابر برآورد چه جرأت داری که به سمت حرم اش قدم برداری ناگهان ناله آمد که منم زینب تا ناگهان ناله آمد که منم من, من خوهرتم برمونت برم با این و با این صدا تا تو باشی اشکی نمیتونه بمانت زانوان وان عباس پیش بانو لرزید خاستا روی قدم گایه افتد گفت یادت مانده شب قدری که پدر پر پرمیزد از شکاف دران اجره تو را میدیدند چی میخواد بگه دست در دست حسین یاد داری نفس آخر بابایم را کربلا جان تو و جان حسین گفت آری بانو گفت آری به خدا یادم از گفت عباس شنیدم که همان نامه به دستت دادم کودکان در خیمه ز نفس افتادن کویا آوار شد آلم به سرش یک باره عرق چهره سرخش به زمین میریزد رگ پیشانی او پیدا شد به امیری که علم داده به دستم سوگر من کجا؟ حرف اما نام کجا؟ داش پردا سرخ از دم شمشیرم از سفیر تیرم چشم خاتون نگرد از دم خیمه که چه قوغا سازم رزم را یک طرفه ختم به خیرنش سازم من کجا حرف امان نام کجا ندهم هیچ امانی که نفس تازه کنند آری کبوتر با کبوتر فرق دارد چشمان لیلی خوشیا فرق دارد پیغمبران سرمست از یک جرعه بودند اما پیمبر با پیغمبر فرق دارد لب جان میداد و مشک آب بر دوش برادر با برادر فرق دارد دعوت می‌کنم که درس دیگری از عاشورا بگیریم از زبان حجت و, و المسلمین استاد دهشیری بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله تاسوعای حسینی را تسلیت عرض می‌کنیم نهمین درس آشورا ایثار و فداکاری است ایثار به معنای مقدم داشتن دیگران بر خوده. با وجود اینکه انسان به چیزی احتیاج داره اما دیگری رو مقدم می داره و این در زندگی پیشوایان دینی ما به خوبی مشهوده، هم در عبا علیه السلام عنوان بزرگ پرشمدار آشورا و, و هم کسانی که ایشون رو یاری کردند. روز تا سو آ منصوب به حضرت عملفرز علیه السلامه. اجازه بدید در این زمینه من دو سه جمله عرض بکنم که ایسار و فداکاری رو در چهره این بزرگ تاریخ ما مشاهده کنیم. اولا بدونیم که حضرت اول فضل مورد علاقه و محبت چند معصوم در اصل خودش بوده. امام علی، امام حسن، امام حسین و امام سجاد علیه السلام. و دارای مسئولیت های مهمی هم بوده در کربلا مثل پرچمداری، سقایی نگهبانی و بالاخره پشت و پناه اهل حرم. دارای بصیرت و ایمان نافذی هم بوده. و خیلی مهمه وقتی میاد اجازه بگیره از برادر بزرگوارش امام حسین که به جامش رو فدا کنه امام علیه سلام به او فرمود که برای کودکان آبی تهیه کنه وارد شریعه میشه کفی از آب برمیداره عیسیار رو اینجا مشاهده کنید فذكر اتشال حسین فرمل ما علی الماء خاص آب بخوره تشنه است اما به یادش آمد تشنگی برادرش ابوالعبدالله را آب بر روی آب به دریا پاه نهد و تشنه لب بیرون شد از دریا مروت بین جوانمردی نگر غیرت تماشا کن این میگن ایثار ایثار در اوج اتش، ایثار از این بالاتر که جانش را که میتوانست نجات بده و همچنین جان برادرانش شرو در کربلا ماند و گذاش و تقدیم عبدالله کرد براش امان نماوردن در شب آشورا، گفتن که شما بید به سلامت بروید، حسین رو رها کنید، گفت سیاه بادرویت، شکسته باد دستت ما حسین رو بگذاریم در میان شما و خودمون سالم ببانیم، مند و قبل از برادرش هم به شهادت رسید، و این رو میگویند ایثار ایثار و فداکاری رو باید از یاران ابو عبدالله به ویژه حضرت عمل عباس، عليه السلام ومغ عليك أيها العبد الصالح والصديق المواسي والسلام عليكم <سطير Liberty répondre> خب دوستان گرامی به پایان برنامه موج عشق رسیدیم از همه شما عزیزان التماس دعا دارم در عزاداری هاتون در شب آشورای حسینی برای بنده همکاران و همه متمنسین دعا دعای خیر بفرمایید انشاءالله خداوند یار و نگهدار